دارم دارم محضر همه عیزه محترم فریختگان و دانشمندان حاضر در جلسه و همینطور عزیزانی که از طریق فضای مجازی خدمت بزارشون هستیم و در خدمتشون هستیم نشست علمی بازخانی انتقادی داده های رجالی ابن الغذایری در کتاب و رو با ارائه جناب استاد حضرت حجتر اسلام و المسلمین حسین پوری و نقد جناب استاد دکتر مهدی قلام علی خدمت شما عزیزان هستین خب جلسه به این نحف هستش که طبق تصویم گرفته شده حدود پنج دقیقه در ابتدا بنده خدمت گذارتون هستم و بعد از اون ارائه جناب استاد حسین پوری رو خواهیم داشت حدود 45 دقیقه و پس از اون نقد استاد محترم جناب دکتر مهدی غلامنی رو خواهیم شنیم و بعد از اون سوالات و پرسش های که مطرح میشه هم از عزیزانی که در جلسه حاضر هستن میتونیم سوالاتی رو داشته باشیم و هم در واقع عزیزانی که به صورت برخط به ما متصل هستن میتونن پرسش های خودشون رو مطرح بکنن و در بحث ما مشارکت داشته باشند من در واقع به عنوان دبیر این نشست از وظیفه من اینه که در ابتدای جلسه به طور خیلی خلاصه طرح مسئله بکنم که انشاءالله فضای ذهنی عزیزان آماده بشه برای جلسه خب مرحوم ابن القضائری یا همون قضائری دوم یا قضائری پسر جناب احمد ابنال حسین ابن عبیدالله شخصیت فوق العاده مشهوری هستند و یک رجالی معروف و بنامی هستند میراثدار پدر بزرگوارشون جناب حسین ابن عبیدالله هستند که یک مدرسه علمی خیلی مفصلی رو در عراق سده چهارم داشتن سده چهارم و پنجم داشتند داشتن و عرض محضر مبارکتون که ایشون با یک فضای علمی خیلی ویژه توسط پدر بزرگ میشن و در حقیقت میبینیم که مرحوم نجاشی در جای جای فهرست خودشون اقوال ایشون رو بهش توجه کرده با عبارت قال احمد ابن حسین بر فهرست نجاشی ما فراوان مواجه میشیم این خودششون دهنده اهمیت آرای رجالی اوست که نجاشی به ایشون توجه ویژه داشته و اگر نگیم که ایشون استاد جناب نجاشی بوده حداقل هم بحث ایشون به حساب میاد و کسیه که مرحوم نجاشی در بیشتر مواقع آرای رجالی ایشون رو پذیرفته اما با این حال نکته عجیب در مورد شخصیت ابن قزائری اینه که تا اونجایی که من همین الان چک کردم اگر درست چک کرده باشم نه مرحوم شیخ و نه مرحوم نجاشی هیچ یک در فهرست خودشون مدخل یا ترجمه از احمد بن حسین ندارن و این یه نکته فوق‌العاده عجیبه البته شاید اینکه نام ایشون احمد و حرف در حرف علف مرحوم نجاشی تا حدود زیادی تابه آرای مرحوم شیخ بوده در حرف علف و نام ایشون هم احمد هست و شیخ ترجمه برای احمد بن حسین نداشته احتمالا نجاشی هم شاید به همین جهت تباییت کرده و تو حرف الف میبینیم خیلی تفاوت جدی بین شیخ و نجاشی وجود نداره شاید اگر حرف نام ایشون با حرف دیگری شروع میشد بعید نبود که ما در واقع ترجمه رو در فهرست نجاشی هم داشته باشیم حالا مسئله چی هستش البته؟ من خدمت استاد هم قبل از جلسه سوال کردم که عنوان بحث بحث داده های رجالیه ولی به نظر میرسه که اونچه که مرحوم ابن غذایری رو از دیگر رجالیون شیعه جدا میکنه صرف داده های رجالیه ایشون نیست بلکه آرای رجالی او اون اونچه که ابن غذاائری رو از دیگران متمایز میکنه و در واقع پژوهش در مورد او رو اهمیت میده گاه تند و گاه فوقالعاده تند او در مورد برخی از روات هستش که ما میبینیم معاصران اون روات از اونها مدهای بلیغ داشتن یعنی کسانی که به طور مباشرتن با اون افراد مرتبط بودن شاگرد اونها بودن مدهای بسیار بسیار بلندی از اونها دارن ولی ابن الغذایری با الفاظ فوقالعاده تندی از اونها یاد میکنه نمونه بارزش جعفر ابن محمد ابن مالک ابن ایس ابن صابور الفزاری است که ابو غالب زراری اون مدهای بلیغ و حوشروبا را از این شخصیت داره و میبینیم که مهمترین شیخ حدیثی ابو علی محمد ابن همامب ابن مهمترین شیخ حدیثی بسیاری از بزرگان در اون دور است اما تعابیر فوقالعاده توندی رو ابن الغزایی در مواد او داره که تعبیر این که کل اویو به زعفا اتون فی اتون فیه همه ایبهای زعفا در او جمعه رو به او نسبت میده و حتی نجاشی ازش نقل میکنه که او رو در واقع کذاب و متروک الحدیث دونسته نجاشی تربیرش اینه که میگه کانه یزعال حدیث یعنی قال احمد ابن الحسین جعفر ابن محمد کانه یزعال حدیث وزعن یعنی حتی وزع حدیث کذاب بودن و این توابیر رو به کسی نسبت میده که دست کم شاگردان او این رو نشون که ندادن هیچ بلکه از او معد کردن اول قاسم در استقاسه او رسمند سقدونسته این دست از آرای رجالی ابن القذایریه که برای ما محل شگفتی هستش که امشب در این نشست علمی قراره به این نکته بپردازی من بحث رو طولانی نکنم فقط به این نکته پردازم که گاهی پس یه فرقی قائل بشین بین داده های رجالی ابن القزائری که خب داده های رجالی ناسهی که میتونه ناشی از صحف یا نسیان یا خطر یا هر چیز دیگری باشه عمری نسبتا طبیعی هست مثلا در مورد سید ابن حسین ابن القزائری او رو تابعی میدونه در حالی که او به زحمت از سقار اطباع تابعین متوفای 180 هجری قمری این که کسی رو متوفای سال 180 هجری قمری از روات ترمزی و نسائیه ابن القضایری به طرز عجیبی او رو تابعی خونده خب این خورده عجیبه چون سید ابن خسنگ راوی شناخته شده یه راوی ناشناختهی ای نیست این داده های رجالی او که گهگاه میبینیم که ناسحیحن یک سوی قضیه است اما به نظر میبینیم که آنچه که مهمتره در مدار دا ابن القضایری آرای اوست نمونه بعدی تعبیر متحالک در مورد احمد بن محمد سیاری که این تعبیر رو من نگاه کردم دیدم که نه تنها ابن القزائری در مورد هیچ کس دیگه‌ای به کار نبرده بلکه هیچ کدوم از رجالیون ما راجبه هیچ راوی دیگه‌ای تعبیر متحالک رو به کار نبردن و ابن القزائری راجبه احمد بن محمد سیاری این تعبیر رو به کار می‌بره که خب ما 150 تا روایت از احمد بن محمد در تراسمون داریم یک کتاب مستقل هم که کتاب القرارات از اون موجوده و دست کم میشه فل جمله و ساقت او رو در واقع نشون داد و این تعابیر تون در مورد سیاری عجیبه خلاصه این دست از آرای رجالی ابن القزایری ضرورت پژوهش و بازخانی انتقادی در مورد آرا و داده های او رو به ما متذکر میشه که در خدمت استاد محترم هستیم برای ارائی بحثشون من از ایشون خواهش میکنم که است رو آغاز بکنن انشالله بعد از ایشون هم خدمت استاد محترم جناب دکتر وحید غلام خواهیم بود با ذکر صلواتی به استقبال آقای استاد و حسینی خواهیم رفت لا اللهم صل علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا ونبينا بالقاصم المستفاد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين و الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فاستغفر الله ربي وأتوب إليه عز آبوي احترام خدمات همه سلام و آبوي احترام خدمات همه در محضرشون هستیم همه عزیزانی که سلای ما رو میشنبند یا خواهند شنید ارز به محضر شریفتون من دیگه زیاد مقدمه نیازی نیست الحمدلله جناب استاد مبهدی فرمودن مقدمات رو من مقدمه اصل بحث خودم رو مطرح بکنم ارز به محضر شریفتون که خوب دوستان مستحضرن یکی از تراسی که باقی مونده از در واقع قرون متقدم ما کتابی است که با عنوان کتاب الزعفای ابن قزایی معروفه من اینجا یک نکته ای عنوان تکمله در واقع نکته که جناب های محمدی فرمودن عرض بکنم می دونید اولین گزارشی که در واقع اسم احمد ابن حسین بعد از دوران نجاشی در اثر مکتوبی ثبت شده کتاب حلل اشتال مرحوم سیر احمد ابن تاووسی متوفای 673 و بعدشم خب این منغولات ایشون در کتب مرحوم علامه خلاست الاغبال اون کتاب مهمشون که به دست ما نرسیده نقل شده منتایی ما تو این فتره تو این بازه زمانی مکتب بغداد تا ما بعضی از درواقع تراسی داریم که غیر مستقیم به دست ما رسیده به طور خاص الان منظورم تراسی است که از طریق مرحوم ابن عبی تائی حلبی به ما رسیده که الان تو لسان و المیزان اینا اصل بحثم نیست اصلا حالا عنوان فقط تمهید بحث می‌خوام عرض کنم این نکته ای داره که تایید شد این منقولات مرحوم ابن عبی تائی تو لسان و المیزان پخش شده در جای خودش توضیح داده شده ثابت شده که تمام منقولات ابن حجر از در باره ربات شیعی اونایش که از کتب رجالی ما اخذ شده یا از کتب یا از کتاب تاریخی مرحوم شیخ منتجب الدین نقل میشه اینا یا از علی ابن حکم اینا همه برگرفته از کتاب الهاوی فی رجال الامامیه مرحوم ابلاویته حلبی است که خب از فوزلای خیلی دلیل القدر حلب بوده متوفای 627 هجری که خب متصفانه تراسشون به جز یک کتابشون مستقیم به دست ما نرسیده دیگه تراست دیگرش فقط یک کتابشون مستقیم به دست ما رسیده و چاپ شده این مجموع منقولاتشون از کتاب الهاوی فیل جالل امامیت و لسان المیزان ابن حجر پخش البته کل کتاب هم ظاهرا به دست ابن حجر نرسیده حالا نکته ای که میخواستم بگم اینه شما تو کل این منقولاتی که ابن عبیتایی داره از کتاب متقدم ما نقل میکنه حتی یک مورد نقل از شخصی به نام احمد ابن حسین الغزائری نمی بینید و این خب یه مقداری جای برحال تعجب ایجاد میکنه کما اینکه که شما طول حداقل در این مقدار اطلاعاتی که به دست ما رسیده از تاریخ ابن نجار هم شما نقلی از ای به احمد ابن حسین الغزائری نمی بینید می دونید اننا جور مرحوم نجاشی رو در تاریخ بغدادش ترجمه کرده ولی در قسمی که الان به دست ما نرسیده فرزند مرحوم نجاشی رو ترجمه کرده و الان به دست ما رسیده تو اون قسم جایی که فرزندش رو ترجمه می‌کنه میگه پدرش رو قبلا یاد کردیم ولی شما هیچ اشاره ای به احمد ابن الحسین نمیبینید با وجودی که حتی مرحوم ابن علی از پدر ابن قزائری یعنی حسین نوبیل الله هم اسم میبره ولی حال شما در این فتره هیچ اشاره ای حتی تو کلمات امثال ابن ریسی یا دیگران هم نمیبینین البته عموما این آثار این دوره زیاد به دست ما نرسیده ولی هیم همین مقدارم که رسیده یه نکته قابل توجهیه نمیخوام بگم حالا این مثلا تمام استدلال ها رو اثبات، نکته ها رو اثبات میکنه ولی این غرابت خیلی حال جای سوال داره که چطور یک تراسی که اینقدر تلاس انتقادی است در این دوره تقریبا دیویس ساله از چار تا و پنجاه تا شیست سد و پنجاه مثلا اگه فرض کنیم همه حدود باشه که تقریبا همینطوره در این دوره دیویس ساله شما هیچ گزارشی ندارید این نوعی به نظرم میرسه انزوا یا در واقع مهجوریت این <تصفيق> کتاب رو میرسونه به هر حال حالا ما الان در مقام چیز نیستیم مناقشه در انتساب کتاب چون انتساب کتاب رو تقریبا مفروض می گیریم خیلی مناقشه ای بر انتسابش نداریم این نکته حاشیه‌ای بود این که پرانتز بحث ما بود اما ارزم کنم محضرتون که بولمان مقدمه اصل بحث اگه بخوام مطرح بکنم ببینید چند تا آمار برای تقریبه به ذهن ارز کنم خدمتتون که برمان مدخل ورود به نمونه های میدانی باشه. ما در کل در واقع محور این بررسیمون همین قسمت در واقع اصل کتابه که در طی دو ای که از کتاب حلول اشکال اقتباس شده به دست ما رسیده. به مستدرکات کتاب کاری نداریم. حالا یه علت اصلیش اینه که گاهی انتصاب این مستدرکات خیلی به نظامی واضح نیست ولی حالا با به جهت اینکه دقت نتایج بالا بر وارد بحث مستدرکات نشدیم یعنی آمارها و بررسی هامون ناظر بجز شاید در یک مورد یا دو مورد <تصفح> شاید فقط یک مورد باشه بجز در یک مورد باقی نمونه ها و مسائلی که می بررسی بکنیم تو در واقع محدوده همین اصل کتابه عرض به منزرتون که کل اصل کتاب 159 مدخل و تقریبا رسیدم سد و چهار مدخل رو بررسی دقیق بکنم و تطبیق بدم با منقولات دیگر رجالیون ما در هفتاد قبلش اینو بگم در سی مورد تقریبا سی مورد مدخل وجود داره که تو باقی کتب رجالی ما هیچ مدخلی یعنی کسی مدخلی برای اون اناوین قرار نداده کل مدخل ها 159 تا است. تعداد افرادی که در این 159 تا عمده افراد تو این 159 مدخل در واقع ضعیفا هستند در موارد تکتونکی هم اطلاعات تضعیف نشده. البته اینکه میگیم ضعیفا نه اینکه صراحه همه جا لفظی ضعیفه یا ذئئ گفته شده یا به منهج حدیثیش خطشه شده, شده یا اشکالی برحال به حال به منهج حدیثی یا هویت راوی یا نوع در حال جایگاهش مطرح شده حالا ما تمام اینها رو در واقع یک کاسه حساب می‌کنیم میگیم خدشه به شخصیت راوی یا منهج حدیثیش در هفتاد مورد از این و 154 موردی که رسیدن آمار بگیرم ایشون متفرده یعنی هیچ کس دیگری درباره اون شخص تضعیفی و خدشهی مطرح نکرده <تصفح> <تصفح> تقریبا اگر هفتاد درصد بگیریم از سد و پنجا و که رسیدم البته سد تا باید باشه اونا رو دیگه معفو بونن خیلی خود بزرگ باران حساب میکنن میشه چل و پنج درصد خب این خیلی ذوق میزنه چطور 75 درصد تضییفات یک کتاب ارزم کنم که متفرد باشه اگر اون برای اینکه دقت با آمارمون باز بیشتر بشه سی مورد که هیچ کسی دیگه این مدخل نکرده ممکن که کسی بگه که خب حالا یه گروهی هستن که اصلا دیگران مدخل نکردن اینا رو ما باید حذف کنیم اگه اینا رو حذف بکنیم و مشترکات بین ابن غزائری و مداخل مشترک رو حساب بکنیم یعنی تقریبا از این 154 تا میشه 124 تا تقریبا آمار که بگیریم میشه 56 درصد یعنی بازم آمار به حال بیشتر میشه خب این خیلی ذوق میزه و نکته غریبی به نظر میرسه علاوه بر این شما اگر یه مقایسه بکنید من فقط برای تقریبه به ذهن این آمار رو عرض میکنم برای اصلی بحثم اینها نیست. در داغدار اون هم خلاص این مسائل در واقع نمونه‌های میدانی رو محور اصلی بحث فرض بفرماین ما با عنوان نمونه سعی کردیم برای تقریبا بزین سه لفظ کذاب و زاء و یزع الحدیث حالا با در واقع نسب رفتش و این حالات مختلفش که تو کتاب ابن غزالی خیلی تکرار میشه اینا رو یه آماری بگیریم 26 نفر از بین این 129 نفر با این سه لفظ در واقع تضعیف شدن کذاب اره. یا وزا یا یزاول حدیث یعنی 16 و 3 درصد در حالی که در کل کتب دیگر رجالیمون مجموعا این سه لفظ 15 مورد به کار رفته به طور خاص در رجال نجاشی که 57 نفر تضعیف شدن این سه لفظ در باره هشت نفر فقط به کار رفته یعنی چارده درصد از راویان جالبه که بدونید در مقابل در اهل سنت ما یکی از سختگیر ترین روات رجالیون اهل سنت که ابو جعفر اقلیس اگر کنیشو اشتوانا نوشته باشم صاحب ازو افاول کبیر که جز متختگیرهای رجالیون عامه حساب میشه در کتاب رجالش که یعنی زو کبیرش که دو و و یک راوی رو در واقع ترجمه کرده حدود 100 بار این لفظ در باره ببخشید در باره راوی حدودا این, این ستا لفظو رو کار برده یعنی میشه چار و هفته همه در سد. باز برای اینکه یه مقداری باز آمارمون تلاش بکنیم دقیق‌تر بشه در میزان اعتدال که یازده و سه نفر ترجمه شدن این الفاظ 473 بار تکرار شده در روات متهم یا روات قطعی و زرف و یعنی چهار و دو دهم درصد روات سنی روات متهم سنی با این سه لفظ در واقع وصف شده البته توجه دارید گاهی درباره باری یه نفر چند بار این لفظ ها تکرار شده لذا تعداد نفرات باید کمتر از این تعداد باشد. میزان عدالت و بله بله میزان لعتدار... میزان اعتدال کتابی است که ذهبی برای گردآوری اسامی زعفا کسانی که یا قطعاً ضعیفان یا ارص کنم که ضعفشون ترجیح داره یا احیانا حالا مواردی هم آورده که سقاتی هستند که از نظر او قابل دفاعن به ناحق در واقع متهم شده حالا اینم عنایت داشته باشید که تو خود روات سنی هم وقتی اتهام کذب و اینها رو میزنن شامل بسیاری از روات شیعی هم میشه یعنی این کذاب و یزالدین و, و, و امثال جابر رو مثلا ابراهیم ابن محمد ابن علی یحیی مدنی و اینها اطلاق میکنن لذا یه درصدی از این آماری که نقل میشن روات خودمونه ولی یعنی روات اصل سنی رو هم باید در واقع حساب بکنیم خب با توجه به این نکته ها سوالهی که فرامده بودید داده ها و آروه هم قرار شده داده ها و آروه این حالا برمان مقدمه بحث خواستم مطرح بکنم که این حالا آماریه که به نظر عموم میاد این آمار جای تنبه داره که چطور میشه در میزان و اعتدال زهبی چار و دوده همه درصد روات با این الفاظ م... در واقع زم شدن مظلمت شدن به نسبت و در کتاب زعفا بیس 16 درصد یعنی نسبتش میشه 4 برابر اما درباره اینکه فرمون الان حالا چرا عنوان داده ها به کار بردیم خاطر اینکه میخواستیم اعم از توصیق و تضییع باشه یعنی صرفا بحث توصیق و تضییع نیست گاهی اشتباه در عناوین گاهی اشتباه در تشخیص طبقه و امثال اینها رو هم خواستیم اضافه بکنیم حالا البته اونها هم آراء حساب میشه عملا یعنی داده ها رو فرض گرفتیم آرایی که ایشون در واقع قبول کرده و نه اینکه فقط خواسته ناقل باشه داده ها رو اینجا معادل فارسیه اون کلمه آراب در نظر گرفتیم خب ارز کنم به شریفتون که ما سعی کردیم بندی بکنیم این تضعیفات مرحوم ابن غذایری رو این دستبندی ها بندی های منطقی نیست فقط دستبندی بندی ایه برای این که ما بهتر بتونیم کتاب رو کالبوت شکافی بکنیم و احیاناً با نقاط خلع و ضعف کتاب آشنا بشیم. لذا از این جنبه حالا عفف می فرمایید. این دسته ها با هم هم پوشانی هم دارن. لذا این رو یه دسته ای اولی از راویانی که ایشون تضعیف کردن دسته است که خب تضعیفش در کتاب ابن غذایری وارد شده ولی از اون طرف می‌بینیم برخی از بزرگان و مفاخر طایفه این افراد رو توصیف کرده. مثل، حالا این، ما سر همین را هم باز دستهای مختلف بکنیم. یه دست است که ابن غذایری خیلی شدید اونها رو تضعیف تز... کرده. در مقابل بعضی از بزرگان طایفه با تعابیر بلندی بر وساقت اونها تأکید کرده. چند نمونه از این افراد رو اگه بخوایم مثال بزنیم نمونه اولش جعفر بن محمد بن مالک است. من مجبورم بینید که برسم اگر خدا توفیق بده سریع رد بشم عبارات رو شاید نرسم همش رو بخونم چون تصویر رو اینشالله رو فقا دارن بتونن ملاحظه بفرمن خب خیلی عبارت شدیدی فقط یه ای که داره مروم ابن غزائری میگه که کل عیوب مجتمع مجتمعتن فی این تعبیر خیلی تعبیر سنگینی همطور که جناب استاد ممهدی هم می فهمم. ما اصلا در کل رجال شیعه ما یه همچین تعبیری درباره باره کس دیگه ای نداریم حالا این جناب جعفر فزاری چه شخصیتی بوده که کل ایوب زعفا در اون مجتمع بوده من نمی دارم آیا در سنی ها هم همچین تعبیری داریم یا نه این ایوب زعفا را اگه همون تعبیر همون عرفی هم بخواییم معنا بکنیم خیلی بار معنایی سنگینی داره خب مرحوم نجاشی هم تعجب میکنه از این که ابن غز... ابن مرحوم ابو غالب زراری داره نقل میکنه از جعفر اما نکته اینه که حالا ما در جای خودش توضیح دادیم که, ج... که جناب ابن غزائری حد دقل هفتاد هشتاد سال از زمان جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری تأخر تبقه و فاصله زمانی ده سؤال اینه چطور میشه یک کسی که از اجلا طائف است به نام ابو غالب زراری که اگه کسی در فقاهت و وساقت و جلالت شعن او خدشه بکنه من نمیدونم حالا چه تبیری به کار ببرم یه همچین شخصیتی درباره جعفر فزاری تعبیر میکنه که مکان کلیله ربانی میگه مثل مربی بود مثل پدر بود برام چون از کوچیکی،, کوچیکی من پیش برادرش بزرگ شده بودم و با اون مرتبط بودم و کان احد الفقهاء شیعه و زهادهم و زهرا من بعد موتهی من زهده مع کثره دیگه ترجمه جسارت محله رفقا دیگه شأن و صدر بزرگیوار ایشون میگه تو زمان حیاتش هم خیلی کرامات از ایشا صدر میشد بعد از وفاتش هم کراماتی از او صادر شد چطور ممکنه کسی که خانزاد جعفر هست در خانه جعفر بزرگ شده از او با یه همچین تعابیر عجیبی تعبیر میکنه که درباره باقی اساتیدش ابو غالب هم چه تعبیری نمیکنه در رساله درباره هیچ استاد دیگه اییش تعبیری نمیکنه و مرحوم ابن غزائری هفتاد سال هشتاد سال بعد در میاد و میفهمد که کل عیوب زعفا تون فی کذابون الان من تعبیرشون رو بخونم که کذابون متروک الحدیث جملتن یعنی کل حدیثش رو باید دور ریخت و فی مذهبی ارتفاع و یر بیان زعفای بل مجاهی ما اعتقادمون اینه که با یه نگاه تحلیلی و تاریخی حالا که رو در جای خودش توضیح دادیم ما این تصیف مرموم ابن غذایری رو توانیم بپذیریم نمیتونیم صرفا بگیم چون ایشون خیلی دقیق بوده من امت الفند بوده مثلا از این تعابیری که حالا بیشتر آلت هر وقت جنبه های احساسی بحث و تقویت میکنه ما بگیم که ایشون در واقع یه چیزهایی از ابو غالب شنا... از جعفر فزاری شناخته که ابو غالبی که تو خونش بزرگ شده خبر ننشته این خیلی در واقع از نظر عرفی و من منحج عقیمی به نظر میرسه باشه البته مرحوم شیخ هم توصیقش بیشون رو نقل کرده من اینجا عمدن به تو این بحث به توصیقات مرحوم شیخ در اون مواردی که مخالف ابن غذایری است اشاره نمی کنم خاطر اینکه ممکنه حالا بعضیها البته به ناحق متأسفانه نگاه منفی گایی نسبت به در روح تعابیل و توسیقات شیخ دارن ولی حالا به جهت اینکه مستمسکی برای احیان خدشه های پیدا نشه من اینو عمدن تمرکز کردم روی تعابیل محوم نجاشی و مقایسه با تعابیل ابن غزواری نفر دومی که هست و ایشون تعابیل خیلی تندی دربارش داره معلب ابن خنیس، معلم ابن خنیس میدونید اولین کسی از آثار موجود ما که درباره او سخن گفته به عنوان مدخل رجالی مرحوم کشی، الوت روایاتی که ایشون نقل میکنه تو منابع قبل از ایشون هست، تو کافی جای دیگه هست، مثلا بس... کافی و سایر جای دیگه هست. ولی به عنوان مدخل رجالی تو کتاب رجالی موجود مرحوم کشی. شما کل روایات مرحوم کشی رو نگاه بکنید، می‌بینید م... فضا فضای مثبتی است نسبت به معله. منتها اشکالی که از این مجموعه روایات درمیاد که معله افشای اسراری میکرده که نباید بیان میشده حالا به طور خلاصه در تصمیلتون نمیشه همه اینا رو مفت... تفصیلش رو اینجا مطرح کرد. اگه خدا عمری باقی بده مشغول نگارش تفصیلش هم هسته میشون در سه در واقع نقطه زعف میتونیم اشکال بگیریم یکی تبلیغ برای وسا... وسایت اهل بیت و ت... دعوت به در واقع امامت و وسایت اهل بیت که ممکن بوده هیالا افرادی که نااهل اهلا باشن این مخاطب قرار بگیرن و لذا امام موارد متعدد به معلله تذکر دارن که افشای سر نکن یه کاری نکن خلاصه آتو دست مردم بری و مردم رو بر اعلاغ ما سوار بکنی توابیر اینجوری طوره باید امام بعدی؟ وسایت امام بعدی؟ نه وسایت امام صادق علیه السلام ارز به محضرتون دو تعابیری که نسبتاً وضوحی، وضوح و آشکارایی آشکارای داشته نسبتاً آشکار بود در تقابل با بنی عباس مثل اون ماجرای روز عید که خطبه خ... اون خطیب میخونده ما الله همزمان مثلاً یه شکوائیهی به محضرت خدا عرضه میکنه که خدای این مقام خلفائط بود که اینا ابتزوها و ثبت هم احیانا بعضی فعالیت های مالی که به عنوان در واقع بستری برای سو زن در جامعه فهم می و ممکن بود لزومن حالا خود معلم همچین قصدی نداشته باشه ولی جامعه یا مخاطبینی همچین برداشتی می که این فعالیت جمعبری اموال برای مثلا تقویت جبه ایمام صادق و طبیعتا بعدش برای در واقع حرکات مسلحانه و امثال اینا در جای خودش الله ان شاء الله خدا توفیق بده مفصل مکتوبش ارائه خواهد شد این سه در واقع نکته باعث شد که معلا دستگیر بشه و خب به شهادت برسه با اتهام اینکه یاران امام صادق علیه السلام رو در واقع اسامیشون رو افشا بکنه ابن غزالی درباره او یه تعبیری داره میگه که کان اول امر هی مغیری ثم دعا الی محمد بن عبد الله بن الحسن ما فی هذه الظن اخذه داوود ابن علی مرحومه آیشوشتری شوشتری اجمالا بررسی کردن در جای دیگه ان مفصل مکتوبش ارائه خواهد شد مغیری اتفاقا خودشون از همون اول کار دعوت به محمد بن عبدالله ابن حسن می‌کردن نه اینکه یه فرقه مثلا دیگری باشن و طرفداران محمد بن عبدالله بن حسن یه فرقه دیگری باشن اولین هسته مرکزی تشکیل دهنده در واقع دعوت کنندگان به محمد بن عبدالله بن حسن از همین مغیره بن سعید بودن بعد از اینکه م... مغیره در واقع کار انحرافش خیلی بالا کشید و به علوهیت گروید و کشته شد باز هم هواداران او تا ده ها و بلکه شاید تا بیش از یکی دو قرن بعدش با عنوان حواداران قائمیت محمد ابن عبدالله ابن حسن یعنی نفس زکیه حتی بعد از کشته شدن او هم مطرح بودن اگر ملاحظه بفرمایید تو کمال الدین مرحوم ابن قبه از اون کلامی که ابو زید علوی داره نقل میکنه از این مرحوم شیخ صلوغ از ابو زید علوی نقل میکنه ابو زید به عنوان یه فرقه ای که میخواد به روخ شیعه بکشه و انحرافات و اینا رو مطرح بکنه از موقعیه اسم میبره و میگه اینا دعوت به محمد بن عبدالله ابن حسن میکنه و خودشون رو موحق میدانن در در واقع امر امامت و تو کتابای فرق و ملل و ها وجود داشته پس معلا اساساً مغیری نبوده در اول کار و باز اگر حالا تفصیل بحثش رو ایشالله ارائه بشه در زمان خودش یکی از شخصیت هایی که به شدت با معلا هم در واقع زد, زد بوده شخصی است با عنوان فوزایل بن مرزوق که از روات سنیه اون نقل میکنه که من از عمر پسر امام سجاد علیه السلام سوال کردم که در بین شما اهل بیت کسی مفترض و طاعت هست میگه که من گفتم نه بابام از دنیا رفت و یه دو کلمه از یه حرفا به من نظر میگه بهش گفتم خب پس این معلیب نخونه چی میگه؟ میگه اینو میگی من خیلی میشنم فکر میکنم که مثلا این چه آدم های هستن دارن دادن دست این مثلا که این شخص در واقع بعد تعبیری که از یعنی گزارشی که از دیدگاه معلی لازکت میکنه میگه این دعوت میکنه به وسایت جعفر بن محمد سلام, سلام الله علیکم. و این رو به عنوان نقطه ضعف و ایراد اساسی که به در واقع معلّا میگیره مطرح میکنه که خب مشخصه که در واقع تو اون اشکال اساسی این بسه بسه تبلیغ برای بسایت اجمالاً نکته بعضی از این نکاتش رو از کردم باز اگر به عنوان یه نکته دیگری در تضعیف این دیدگاه ابن غذایری بخوایم اشاره بکنیم است که از خود معلا نقل شده از خود معلا در مقابل محمد بن عبد الله حسن نقل شده و تعن به محمد بن عبد الله حسن و در واقع رد ادعاهای او مبنی بر امامت و صلاحیتش برای خلافت و در نهایت فی hazardous نه اخذ او داوود بن علی این هم هیچ شاهد دیگری برش نداریم یعنی تا اینجا ما این کلام ابن قزائری رو هیچ منبع تاریخی دیگه ای تایید نمیکنه یعنی در هیچ منبع تاریخی نیامده که معلا جز هواداران مغیره بوده یا جز هواداران محمد بن عبدالله ابن حسن بوده اتفاقا برعکسش گزارشاتی هست که در جبهه مقابله نفس زکیه بوده و این گزارش آخر هم فی ها به اخذه این هم نادرسته یعنی داوود بن علی تبقیه رویات رجال کشی و منابع دیگه وقتی معلل رو گرفت گفت اسامی شیعه رو به من بده معلل گفت نه من هم چی کاری کنم پس اتحام معلل واقع محمد ابن عبدالله ابن حسن نبود اتحامش این بود که فعالیت میکرد برای بنفع امام صادق علیه السلام و اسمای شیعیان رو میدانست داوود بن علی او گرفت در سال 132 ظاهرن که بنی عباس هم اول سر کارومدن بنی عباس او رو به شاهدت رسو امام صادق علیه السلام اون کسی که هم داوود بن علی نستید که پرداش موند بله بله علی برای میکنه اینکه من توی بله روایات متعددی هم هست که حالا من چون بحثمو و مفصله مجبورم خیلی تلگرافی رد بشم خود فضل الحمدلله اهل بحث هستن و میدونه به محفل شریفتون که اینم بله شا... شاهد قطعیه که آه... هیچ نگاه عرفی تأیید نمیکنه امام صادق علیه السلام در اون فضای حال خطرناک خودشون رو در مقابل داوود ابن علی قرار بدن تازه بنی ادباس سر کار اومده با اون کبکبه و دبدبه به خاطر این که مثلا از یه شخصی دفاع کنن که در عالم واقع دروه ولی از غط مثلا از روی اینکه دفاع کنن از یه شیعی یا مثلا حالا یه همیتی بر قاتل رو نفر می کنم قاتل رو نفر می کنم مستویدن شخصی مالی می کنید؟ بله، بله، منتحالا ما میخوایم خواهد مجموع شواهد رو خیلی سریع رد بشیم لذا، اگر مواردی اشاره نمی دیگه حالا حمله بر این بشه که در جای خودش انشالله تفصیلشو بیان میکنم مورد بعدی داوود ابن کسیر رقیست داوود ابن کسیر است که مرحوم کشی ببینید داوود ابن کسیر متوفای تقریبا علوش سال دیویس و یک و دوه. کمی،, اه، اه، کمی بعد از امام رضا سامال الله علیه که مثلا اگه در نظر بگیریم از دیویس و چهار تا زمانی که مرحوم کشی داره صحبت میکنه در, بار در باره ابن کسیر مثلا سال فرض کنید سی صد و ده مثلا تقریبا سد و سال، صد و ده سال مثلا کمون بیش گذشتیم اولین رجالیه ما که داره اظهار نظر میکنه درباره داود ابن کسیر مرحوم کشیه در حدی که دایده ها به دست ما رسید. البته میتونیم به این به مرحوم کشی اضافه بکنیم رواتی که روایات مده داود ابن کسیر رو هم نقل کرده ولی حالا ما فعلا از اون صرف نظر میکنیم مرحوم کشی که داره تو حلوش سال 310 زندگی میکنه تعبیری که داره اینه میگه که اگه تعبیرشو حالا بیارید من اینجا نیاوردم تو اینجا بعد از اینکه روایاتی میاره در فضل داود ابن کسیر رو جایگاه او پیش اعمه تعبیرش اینه من درباره اون روایات الان صحبتی نمیکنم تعبیر مرحوم کشی اینه میگه که این مقدار از روایت درباره داود ابن کسیر که به دست من رسید و آوردم میگه الان که دارم با شما صحبت میکنم لم اجد تعبیرشو شب یادت عم کشو بزنید میگه می که لم اجد اهدم من مشایخ الاحسابه طعنفیه تعبیر اینجوری داره یعنی الان که دارم با شما صحبت میکنم تو مشایخ طائفه یعنی سال 310 که الان دارم با شما صحبت میکنم من اهدی در شیعه نمیشناسند که در داوود ابن کسیر طعن زده باشه حالا عجیبه که میبینید 100 سال بعد در بغداد شما میبینه یه شخصیت کاملا منفی از داود ابن کسیر ارائم میشه خب جایی سوال داره چه اتفاقی میفته که مرحوم کشی داره در زمان خودش هم دیدگاه خودشو گزارش گذارش میکنه هم دیدگاه مشایخ اصابه رو گذارش میکنه میگه من کسی رو پیدا نکردم 100 سال بعد یه نگاه منفی حاکم میشه ما به نظرمون میرسه که حالا در خصوص رجال ابن در واقع اصل علالش رو انشاءالله در نهایت بحث عرض خواهم کرد ولی به طور کلی اگه بخوایم عرض بکنیم تطور و تحول ناشی از دخالت خیلی از عواملی که لزومن ربطی به وساقت و زعف و راستگویی و دروغگویی راوی هم نداشته تأثیر گذار بوده در, در واقع پیدا هم من پیدا نکرد دبیر یه بار بفرمایید؟ زلی همین داوود بن کسیر را کشیده تولد الرجال کشیده. اینا رو شما پیدا مکنید. اش گنداله والا، رو فرما پیدا. شما که اولین کسی که کشیه، خب برقی هم در رجال از داوود بن کسیر یاد کرده. maksudتون چیه؟ نه، به تضییف و توصیلش یعنی تضعیح کرده باشه. ما این کتابی قبل از کشی داریم که این کارو کرده باشه. ببینید، ارزش کردم در حد آثار موجود دیگه داریم صحبت می‌کنیم. حالا در عالم واقعی رو نمیگید، نمیدونیم. ولی در حد آثار موجود کسی که تسلیح کرده به ثوابت مرهمون داوود ابن کسیر مرهمی کسی است. به هر حال این مدخل بعدیست به نظر ما این عوامل در واقع که میتونیم در مجموع بیش بگیم اواملی که باعث تغییر فضا بر علیه یک راوی میشه باعث شده که در طی 100 سال 120 سال یک راوی در واقع از نگاه مثبت درباره او تبدیل بشه به نگاه منفی. همین اتفاقی درباره جعفر ابن مالک فزاری هم افتاده همین اتفاقی که درباره مؤلف نخونیص هم افتاده و شبیه همین اتفاق درباره جابر ابن یزید جعفی هم اتفاقی افتاده که حالا ما چون جابر رو ابن قزاری تضییف نکرده ما هم وارد بحثش نمیشیم نفر بعدی دسته بعدی از این افرادی که در واقع بزرگان شیعه تایید کردن کسانی که تضییف ابن قزاری درباره اونها به شدت نیست ولی به حال جدی کرده اونها رو به شدت قبل نیست ولی باز میبینیم در مقابل گروهی از بزرگان تا این افراد رو ستودن. مثلا صالح ابن حماد رازی ابن غزایری خب سراعتا میگه که ضعیف هم. حکم به حکم قطعی به ضعفش میکنه. مرحوم نجاشی هم یه تعبیل خرده آلودی داره میگه که کان امروحون ملبسن یعرف و ویوم کرد. اجمالاً نگاه مثبتی از این به دست نمیاد نسبت به اون شخصیت راوی. چه تضعیف سریح نیست عبارت مرحوم نداشه اما شما میبینید مرحوم کشی با سند صحیحش علی بن محمد قطعیبی سمعت و فضل بن شازان مرحوم کشی نقل میکنه فضل بن شازان یقول و فی عبل خیر و حوال صالح ابن سلمه ابی حماده مادر رازی کما کنیه یعنی مثل کنیهش عبل خیر کنیش در واقع مسماش هم مثل اسمش بود باطنش هم اهل خیر و صلاح و صداد بود کان ابو محمد الفضل یرتضیه و یمدحوه سفزل بن از او تجلیل میکرد و بر او سنام میکرد و او رو میپسنده سبارت کشی بلا اسم اهدا من مشايخ الاسحابه یت انافیه یت انافیه اصمه بلا اصمه اصمه خود صدر شما الان فهمیدید که نجاشی مثلا گفتش که روزیات برای سلیق نیست و بعد یه تشریح اینجوری گفت خب تشریح کاربردی بود باعث نجاشی که خرید نیم که نظرش بود بیشتر متوجهoverline نشداره جات کنه حالا حالا ما اینا رو می‌خوایم الان بحثمون ابن قزاریه می‌خوام در نهایت یک نتیجه بگیریم حالا این بحث خرید فنو که فرمودین فقط تو پرانتز ارزش می‌کنه ببینین حالا در جای خودش توضیح دادیم که ما تعبودی نسبت به کلمات هیچ کدوم از رجالیون نداریم طبقه حالا این مبنایی که خود آقایونه متأخرم قبول کردن کلمات رجالیون می تواند منشع یک اطمینان باشه اگه از مجموع این کلمات ما به یک اطمینان تونستیم برسیم بله حالا مهم نیست که لزوما اثبات بکنیم مرحوم نجاشی همه جا درست گفته یا نه برخلافش نه و این قاعده سازی ها را هم درست نمیدونیم یعنی بگیم چون مرحوم نجاشی خریط فنه همیشه درست گفته یا همیشه حرفش ترجیح داده در قرآن پس ال اهل ذک ان کنتم تعلمون یعنی این سوالات رو اگه بیزی میدید مثلا در اجازه بدین آره این بس چون تیک تیکی بشه تقریبا الان یه ساعت اش رفته خیلی مثال ها مثال بعدی که وجود داره محمد, محمد تا تا بعدی رو هم حتما آره آره. به نمونه بعدی محمد ابن احمد قلانسی است همدان قلانسی ابن غزالی خب صراحتن تاکید میکنه ضعیف و یربی عن یعنی دو تا خدشه. هم خودش هم ملحج رو خطشه میزنه مرقوم نجاشی هم با تعبیر مستربان نگاه منفی خودش رو نسبت به او ابراز میکنه اما جالبه که مرحوم کشی میگه من از عیاشی سوال کردم میدونید عیاشی شاگرد همدان قلانسی است و از او روایت متعدد داره قابل توجه حالا نمیدونم زیاد زیاده یا نه ولی تعدادش قابل توجهه مرحوم عیاشی اینجوری میگه میگه و اما محمد ابن احمد نهدی یعنی کسی است که با خونه نهدی رفت آمد داره رفت میگه و و قلانسی کوفی فقیه فقتون خیر. با سه تعبیر فقیهون فقتون خیرون بر مقام و در واقع جایگاه علمی اون شهادت میده و هیچ نقطه ضعفی هم در شخصیتش یا منهج حدیثیش ذکر نمیکن نمونه باز بعدی عرض به محضر شریفتون که سهل ابن احمد دیباجی است خیلی عجیبه این مورد اتفاقا حالا مخصوصا برای کسانی که مثل این دوست بزرگوارم رو روی کلمات نجاشی انایتی دارن مرحوم ابن غزائری در اون اینجوری گفته زعیفن یزعال احادیست و یربی ان المجاهیل ولی اون روایت اشعسیاتش اشکال نداره البته امروز دیگه این فاتحه اشعسیاتم متاسفانه خونده شده حالا میگه که سهله ولی مرحوم نجاشی عجیبه که سهل ابن احمد دیباجی فلان ابو محمد لا بأسبهی کانیخ في امره او كثيران شد بازورش از جنبه تقدیم و مثلا تغییر میکرده در اعتقادات. ثم ظاهر بقرنی ما بعدش. ثم ظاهر بدين في آخر امره. یعنی هیچ لحظه ضعیفی از او مطرح نمیکنه بلکه با تأیید لا بأسبه در واقع تایید اجتماعی میکنه شخصیت او رو. مورد بعدی ابراهیم ابن امر یمانی است. ابن خزاعی زعیفون جدا درباره او به کار برده مروان نجاشی میگه شیخ من از اث... من اصحاب نافقه و با این تعبیر در واقع یه مساوات قابل قبولی رو از نظر خودش مطرح میکنه هیچ خورده خر... این رو هم مطرح نمیکنه باز مورد بعدی زکریا ابو یحییل موسیلی کوکب معروف به کوکب و دم است ابن قزالی درباره او تعبیر میکنه کوفی زعیف ضعیف روان ابی عبدلله مروم کشی از یونس نقل میکنه با سند صحیح که درباره یونس گفته کان شیخم من الاخیار و باز با سند صحیح مروم کشی نقل میکنه که حسن بن علي ابن, ابن درباره او گفته که انه یعنی حسن بن علي ابن, علی ابن یقتین گفته من میشناختم این کوک بودم رو ايام ابي یعنی ايام پدرم علي ابن یقتین که اهل فضل بود لهو فضل مدين اینم دسته دو دسته سوم از کسانی که تذیه شدن تذیهی است که ای است که تذیه ابن غزالی درباره اونها خیلی شدید در مقابل ما توصیق سریح نیست ولی مده تقریبا هم وزن توصیق درباره اونها داریم یه نمونش حسن ابن محمد ابن یحیی ابن اخی طاهره من این مورد رو میگم بعد به عزات استاد غلامعلی باگذار میکنم بدون مزاحمت ابن غزاری درباره او باز یک تعبیر خیلی عجیبی به کار میبره میگه کان کذابن یه از اولهدیس مجاهرتن تو راست راست را میرفت دروب نبرد خب این خیلی واقعا ای آدم میگه خدایا البته این دارید که ابن غزاری او رو درک نکرد یعنی حداقل پن... تقریبا چل سال تا پنجه سال فاصله زمانی داره تو متوفای سی قطعا او رو درک نکرده <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> و يد دائره الرجال الغرباء و يعرفون و مجاهيل لا و وما تتيبل الانفس من روايات الا اونچه که از کتب جدش یعنی کتاب نصب یحیی بن حسن یا علی ابن احمد عقیقی نقل کنند مرحوم نجاشی هم با همین تعابیر تقریبا یه مقدار خفیفتر البته خف... یعنی خیلی شدت اونورده پایین در واقع رایت اصحاب الان یوزعفونه رو نقل می‌کنه مرحوم شیخ صدوق از او مکرر روایت داره و در این روایات در جاهای مختلف با تعبیر رضی الله یا رحمه الله از او یاد میکنه هم رضی الله متعدد داره هم رحمه الله متعدد داره باز اگه اگه آمارم بفرمایید memnun میشید در انتهایی بفرمایید آمار نسبت به نسبت به اینکه تعداد اونهایی که ابن غزالی تضعیف کرده ولی ما با شواهد اونها رو توثیق میکنیم الان مجموعه این حالا این دسته هایی که گذشت و دسته های آینده رو اگه بخوایم در واقع محور قرار بدیم با این پیش فرض که در مواردی که تعارض بین کلام ایشون قرار داره با کلام مثلا مرحوم نجاشی و اینها این هایی که ما شواهدی علیه ادون قضایی داریم, داریم. چه تعداد هستن؟ تقریبا هلوش این مقدارماری آمواری که حالا باید دقیق تر بشه آمار ولی این مقداری که نوشتیم تقریبا هلوش پنجاه و یکی جو مورد هست باید. یعنی در پنجاو یکی دو مورد از این صد ای صدو... ای که... و صد بیست موردی مورد نه صد و مورد سی که... موردش که ایشون من سی مورد, مورد حالا ذکر نه که ولی تضعیف کرده حالا در کل این در واقع موارد همه رو با هم حساب کنیم در پنجاو یکی دو مورد ما میتونیم کلام دیگران رو ما بدانیم بر کلامشون درباره این حسن ابن محمد ابن یحیی فقط من اشاره بکنم که حالا امروزه که بعضی ها در واقع فوزرهای معاصق بین تره و ترزی تفاوت میگذارند ترزی رو اتفاقا حمله بر وساقت و جلالت شعن راوی میکنن و از این وساقت رو برداشت میکنن که تو قبسات هست جایی دیگه میتونن ملازمی کنون در سندی در عمالی شیخ توصی مرحوم شیخ مفید که جایگاه استاد ابن غزائری رو داشته و به فراوانی هم از این ابن اخی طاهر در کتاب الارشادش روایت میکنه البته روایات همه روایت کتاب جدشه کتاب نصبه ولی به او اعتماد کرده در یک سند مرحوم شیخ مفید تصریح میکنه میگه اخبرانش شریف الفازل چون سید بوده این جناب ابن اخی طاهر از شریف الفازل تعبیر میکنه باز مرحوم شیخ توصی میگه که تل اکبری از سال 327 تا سال 355 مرتب به محضر اون میرفت و از اون کسب به حدیث میکرد حالا واقعا جایی سوال نداره یکی کسی راست راست را میره و دروغ میگه و مرحوم شیخ مفید درباره او بگه کانه مثلا اششریف ال... الفازل و مرحوم تل قدرد. اکبری هم که از اجلا اصحاب ماز و خود شیخ مفید تصریح به وساقت تل... تل... تل اکبری داره در اون نقل کتاب اقبال هست این بزرگوارن مثلا در حد 20 سال مثلا 15 سال 20 سال همطوری برنگ پیش یعنی شخصی اقصه حدیث بکنن باز شاهد دیگری بر بحث وساقت او تعبیر است که شیخ الشرف عبایدلی داره البته تو کتاب المجریفی انصاب طالبیین نقل کرده که برای که اسمشو میاره میگه و حوال معروف به دندانی روا کتاب جدهی و کان محدثاً فاضلا ابن صوفی صاحب المجدی قرن پنجم زندگی میکرده رعاه ابن عبی جعفر شیخنا عبالحسن ابن عبی جعفر معروف به شیخ الشرف العبایدلی شاگرد این جناب ابن اخی طاهر بوده و این اطلاعات رو مشخصه که المجدی با واسطه در واقع شیخ الشرف که شیخ الشرف از اجلا نسابین ماست و بزرگان اهل نصب در واقع و, و جایگاه علمی او اعتراف کرده. این تعابیری است که در مقابل ابن قزالی باعث تردید جدی میشه در این اتهامی که به او زده مخصوصا با توجه به این که اصلا او رو هم مستقیما درک نکرده در حالی که کسانی که مستقیما این ابن خیتاهر رو درک کردن او رو با تعابیر رحمه الله فاضلا رضی الله عنه یاد کردند و اینا افراد بی بوتیا نیستن نیستنی کسانی که توصیف کردن یکی کس اسمش شیخ مفید یکی کس اسمش شیخ شرف دلی، یا ترزی از شیخ صدوق یا طلای اوکبری یا مرحوم طلای اوکبری با اون آه. تعامل علمی مستمری که داشت خیلی ممنونم استاد حسین کمال ادامه واسه اگر عمر باقی بود دارم. خیلی متشکرم سپاسگزاری می‌کنم از استاد ارجمند جناب پس حسین پوری عزیز بدون فوت وقت در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر محدی غلامعلی هستیم استاد بفرمایید چنده وقت دارم حضرت های چلی بپسند بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر و محین سلام و عزادب دارم خدمت حضار محترم اساتید معززی سلام. که در جلسه حاضر هستم و بزرگواران که احیانا به صورت مجازی در محضرشون هستیم تشکر میکنم از عرضهی که این جلسه رو تشکیل دادن برکاتی داشت از جمله اینکه زیارت بعضی از احبا که مدتی بود توفیق نداشتیم که خدمتشون برسیم تو اینجا زیارتشون کردیم و همچنین برای من هم توفیق بود من دیشب که میخواستم این کتاب رو نگاه بکنم دیدم که نوشتم تمت به آن الله یوم السبت از من شهر محرم الحرامه حالا اونقدر شد فارسی هزار سی دیدم ده سال پیش این رو من یه دفعه دوره کردم حاشیه زدم و این سبب شد که ما دوباره دیروز و امروز یه دور دیگه این کتاب رو ببینیم و ارادت اوم هم, هم به ابن قضایری بیشتر بشه خدمت شما ارز کنم که جناب ابن قضایری رو من قبل از اینکه که در مورد این جلسه بخواهم صحبت بکنم به دوستانی که بر کننده جلسه بودن دو سه هفته قبل گفتن گفتم اگر مقاله جناب آقای حسین پوری دارن که برای ما استاد حسین پوری بسیار عزیز و بزرگ بوده و حرص هم میشه و ما فکر میکنم اوندوده دو دههی باشه که فدمتشون ارادت داریم و مقاله رو به من برسونن که چبه از ما اختلاف نظری نداشته باشیم و ولی خب مقاله یه چیزی به دست من نرسید تا روز شنبه شنبه, شنبه یک تعداد اسامی راویانی بود که الان هم قراعت فرمودند معمولا متعارف این هست که حالا مقاله رو میخونه آدم یه اطلاعاتی به دست میاره حالا آقا دارن مینویسن حالا مصالحه بعد ظهر اینو جمع بشیم ببینیم که یا مقاله رو قبول می‌کنیم یا قبول نمی‌کنیم خب فل جمله که کار،, کار قشنگی بود مطالبی هم که بیان کردن نکات ارزشمندی بود من حدود پنجت نکتر به عنوان مباحث رئیسیه و یا انولیه ارز بکنم خیلی مختصر بعد وارد بحث خودم بشم و نازر به مطالبی هم که جناب استاد الان بیان کردن حالا باید الان مطالبی رو همینجا در موردش بحث کنیم نقطه اول خود شخصیت ابن قزائری هستش. شخصیت ابن قزائری کسی هستش که بخواید یا نخواهید کسی مثل نجاشیشون رو قبول داره. کراراً در کتاب خودش با همون ادبیاتی که آقای دکتر موحدی هم فرمودن، گفته قاله. حالا این قاله سراحت بر این نداره که از کتاب استفاده کرده. حالا یا هم درس ایشون هستش یا به هر حال از مصادر ایشون استفاده میکنه. حالا استادم نباشه پس یک شخصیت مورد توجه جناب نجاشی هست خب نجاشی رو کسی اگر تو مباید رجالی ما اندک تعمالی داشته باشه خب جایگاهش مشخصه خود شیخ توصی هم در مقدمه فهرستش از ایشون به بزرگی یاد میکنه آدم نابغه است آدم توانمندی هستش که فینده ها عملت کتابا دوتا کتاب رو نوشته یه همچه شخصیتی بوده فهرست اصول، فهرست مصنف خود، به هر این شخصیت شخصیت قابل توجه شیخ توسیخ هم آدم بزرگیه. از اون طرف بزرگواری مثل علامه هلی از محضر ایشون و از مطالب ایشون تو کتابش استفاده کرده. محضر محضران کتاب نهی حالا حضورن که فاصله زمانی داره. بس خود شخصیت شخصیت معمولی نیست. را حواسومون باشه. شاید یک حرفه نفری با مذاق ما خوش نیاد اما از بزرگی اون نمی که این نکته اول نکته دوم بحث شیوه ارزیابی قدما هست قدما به چه صورت افراد رو بررسی می بنابر بر اون که الان امروزه ما در کتاب رجالی قدما نگاه می‌کنیم، کنید دست کم سه آیتم برای ما روشند که این قدمای ما در بررسی یک راوی این ستار مد نظر قرار داده. یکی متن روایاتی که از اون بزرگماران نبود شد. اون رو بیایدن ارزیابی می, می بررسی می کردن. حدیث شناسی یعنی بحث علمی راوی. که این راوی بسر به اخبار هست یه مصر. کمایی که تو تعاویر بسیار دیدید که این مطلب رو بیان کرد. از خود شخصیت علمی راوی و حدیث شناسی در ارزیابی اون راوی محسنه مطلب دوم بحث توصیق و تزعیف راوی هستش بله این رو هم بررسی میکردن و میخواستم ببینند که این آقا در انتقال تراث زابط هست، صدید هست و روایت ها رو مطابق اون که شنیده درست منتقل میکنه یا یعنی. نه و ثبوت نکتهی که در ارزیابی بوده معمولا مذهب راوی بوده که بیشتر هم توجهشون به بحث قلوب بوده و اون زنگ خطری که اهل بیت برای ما روشن کردند که از ناحیه قالیانه پس اینو داشته باشین میخوام تو چارچوب برم جلو که میگم ابن غزاری تو چارچوب قدما عمل کرده یعنی همون بحث متن روایات رو بررسی کرده توصیق و تزعیف کرده و اون بحث مذهب راوی شما مستحسن هستید که دو عصر حاضر مثل شخصیتی مثل های برو که حالا به سندی نیست و موسوق و صدوری هست توی تضعیفات سندی که میرسه اولین نکتش قلوبه اولین نکتش قلوبه تو تضعیفات سندی و بعد میشه ارسال و بعد میشه جهالت راوی و موارد دیگه یعنی بحث قلوب هر کسی که با روایات اهل بیت باشه این رو به راحتی در این نکته دوم در خصوص شیبه ارزیابی قدمنه نکته سوم روش ابن قضائیی هست من خواهش می از شما زمانی نیوغه یعنی فکر میکنم دو ساعت سهصد بیشتر از شما وقت نگیره از اینکه این کتاب رجال ابن قضائیی رو مطالعه بکنی یعنی اگر بخوایم چون با همین چاپی که دارالحدیث شاید الله و ارکانه ان شاء الله باشه که ما همه سر صفرش هستیم خدمت شما ارز کنم که اگر بخوایم همین چاپ رو نگاه بکنیم فکر کنم سه ساعت کاری حال من دیشب و توفیق نگاه کردن فوتبال رو نداشتم مشغول این بودم به خاطر همین فکر می‌کنم دو سه ساعت طول کشید کلش شما من یه دوره کردم فکر می‌کنم که خیلی قشنگ بیان کرد ما آخره هی دور به قول آ قرتی هی دور خوز می‌کردی. نقد‌های نقد های قذای رو میشنیم نمیم دفاع ها رو با ببین با ببینید. من خواهش میکنم همه عزیزان با هر گونه اندیشه ای که اصلن بدون پیشور این۲ چند نفر رو با اون قسمت مستات و رقوززم ببینم میگم سه ساعت بیشتر وقت نمین بذارید ببینید دقت ایشون و ایشون خیلی سوط اما نکته که هست ایشون اینکه این که حالا اینجا همش خبر حسی باشه نه. هم خبر حسی داره هم اشتهادی. و شاید به نظر من میادش که اشتهادش می چربن. و اون اشتهاد که نگاه بکنید همه اون شیوه قدم ها رو به دست میارید که کتاب رو میخوندم، مطمئن دیدم این را صدوق این گفته ولی اشتباه گفته من رفتم کتاب رو پیدا کردم این هستش این دقت دقتای سپدنی هست قهنه چهار رومه. این فرد اومده بررسی کرده اشتهاد کرده حالا اشتهادشو ارجو که اشتهاد میشه امکان خطاها هست این هم یکی از موارد جدی هست که به نظر من می دو تا نکته بشین در مطالعه این کتاب برای هر کسی قلری میشه. یک اینکه اعتهاد داره ایشون بررسی ها کرده کتاب ها رو خونده دو حساسیت شدیدش به خط قلوه به نظر من این اوج به لای ای شده. حال هر چیزی تو تراس ما نیاد خیلی نکته قابل توجهیه مراقبه که هیچ چیزی که بوی کمترین بوی غیر اهل بیتی تو تراس شیعه لذا سری شمشور رو از رو میدم. خب این نکته سوم من هست. بله. من با شما و با جناب آقای امین پوری و با هر کسی که بیان بکنن که عبارت ها تونده بر. یه دفعه این حرف نادرست زده. میگن یه دفعه حرف بد میزنه یا بد حرف میزنه. بله. ایشون بد حرف زده. بعضی یه خیلی توند صحبت کرده این توند صحبت کردن و بعضی افراد داریم دیگه انتقاد میکنه انتقاده به جا اما خیلی تونده بعدش میگه آخ شب اینجوری گفتم حرفش رو خراب میکنه به نظر من بله جناب آقای ابن قذاری تو بعضی از موارد توند رفته بگه شاید من و شاید من جسالت نمیگم. من نمیگم من نمیفهمم این نقطه قابل توجهی هست و نکته چهارون بحث گذینش قدما هست ما میدانیم که بخش قابل توجهی از تراث ما حالایش شده کامل تراث به دست ما نرسیده لذا یه دفعه یه شخصیتی رو میبینیم که ایشون اومده تضعیفش کرده میگیم این به این خوشگلیه چه ایشون تضعیف کرده خب بزرگان ما زحمت کشتن اونهای که مشکل دار بودن رو بریدن نذاشتن بیاد اگر اونها می تازه متوجه می شدیم حالا عرضی گران که امروز دارن تو این زمین زحمت میکشن کشن الان یه سایی تراث نسیلیه اومده و بعضی از عرضی گران قدر دوست عزیز من جناب آقای دکتر باغری و دوست مزرگوارم جناب استاد امید رضا اکبری که شرف حضور هم دارن در مجلس این دو بزرگوار زحمت دارن میکشن این عبالتهای نسیریه ها این ها رو این حال به دست میارن نگاه میکنن و وقتی که تو مقالاتشون میبینید میبینید که عجب چقدر مواردی ما داریم که این روایت واقعا اگر این راوی نرک کرده شاید تعبیری که ابن قذاری کرده باشه شاید کمرنگم باشه عرض میکنم. آز تو این کنم من متخصص نیستم خود این دو بزرگوار و مقالاتشون رو ارجام میدم که ملاحظه بکنیم این هم نکته چهارم رو پس گزینش قدمان سبب شده که روایات مورد نظر ابن قضائری که تو اجتهادش تأثیر داشته ما امروز نداریم و میبینیم که اینجا مشکل هست و نکته پنجمی که برای من خیلی مسئله بود و از مقالات دوستان بزرگوار خودم هم کشف کردم اینطوری و تا الان هم نیافتم حجمه هایی که به ابن قضائری شده از قرن ده هم, هم به بعد. این از دوره اخباری ها حالا من نیافتم شاید قبلش باشه این حجمه هایی که شده بیشتر حجمه های اخباری ها و این گروه ها و این تیپ افراد بوده حالا این که قبل از این بوده شاید بوده من ندیدم اما مثلا جناب مجلسی پدر در روزه و دیگران بیان کردن بله میردامات هم تو ازرواشه اون رو هم دیدم متن دیروز رو اینا هست هست این نکته ای که هستش این هم خورده مسئله داره این عزه به خاطر دفاع از حدیث اومدن به ایشون حجم کردن در حالی که من به نظرم ابن فزاری به خاطر دفاع از حدیث میخواست این افراد رو سمدار بکنه و مشخص کنه این 5 تا نکته‌ای بود که به عنوان مقدمه مباحثا میخواستم از اما حالا ما هستیم و کتاب ابن قزاری یه دسته به این کتاب اعتماد کردن اعتماد کردن یعنی از آرایش قبول کردن بعد از آرائش هم شده نپذیرفتن اما یه گروه ما سه تا برخورد داریم در مواجهه با کتاب ابن قزاری یه دسته اعتماد کردن به هر حال ها رو آوردن اگر اعتماد به خود ابن قضایری که گفتم مثل مرحوم نجاشی و اینها رو داریم اما در عصر این چارقن اخیل مرحوم فاطل تونی فاضل خاجوی اول موالی کلبازی مرحوم شوشتری اینها اعتماد نقدم دارند. یا وحید بهبهانی نقدم زیاد کرده اینا به هر حال به نوعی به بلدی از فقرات این اعتماد کتار. یه دسته هم مخالف آرای ابن قصایی هست گروه دوم هم مخالفین هست. این مخالفین هم دو گروه هستن. هم. هم تو اخباری ها هست هم تو اصولی ها ولی عمده بیشتر ظاهراً اخباری هاست. باز این جای بحث داره و کسی مثل علامه مجلسی پدر بسر محدث نوری و دیگران اشکال گرفتن به ایشون چه اشکالی گرفتن؟ گفتن تسروع در جرح داره و یا بعض ها رو قالی دونسته که قالی نیست اینا جواب دار این که قالی دونسته که قالی نیست این اشتهاد میگه من به این درست رو شما میگید و بقی از اصولیون مثل مرحوم های خویی هم های آقا. خویی هم چی میگه ایشون میگه که من های خویی تصریح میکنه که این انتصاب کتابه به گیر داره و الا چون این انتصابه نمیپسیده تا آخرش هم رفته. و مطلب گروه ثبت و به تفصیلن که مثلا توثیقات ایشون رو که هیچده مورده پرزی رفتن و تضعیفات وی رو معمولا نپرزی رفتن یا دیدگاه های تفصیلی اون اگر بیایم ببینیم اینا که مخالفن با آرا ابن قضایلی چهار تا اشکال جدی هست که استاد به نظرم چهار رومی رو بیشتر رشمانه افتادن یکیش عدم وصول نسخه معتبر از ابن قضایلی هست دوم اجتهادی عمل کردن ابن قضایلی در تضعیفاتی که من خودم قائل هستم سوم تسروع در جرح و تضعیف هست و چهارم کسرت تضعیف که این کسرت تضعیف بیشتر بکنم توی مواردی که استاد ورمودن ورود داشت و بله مشهور و شما هم شدیدین از سالم و من من کسی سالم کسی که ایشون پیشت کاری نداشت جا شد تو رجال میگه آدم خوبی هست و بله این مشکلات رو اینها هست که این تا هم جواب داری بحث نسخه رو اگر مرسل بخونی بابا کتاب حدیثی ها شاید به مشکل برمونی بحث نسخه رو من اشکال نسخه ایشو رو قبول دارم و واقعا وارده نه این که اما خب حالا استادمون رو پذیرفتن که آلا در واقع کنام بحث نسخه رو بذاریم کنام اشتهادی عمل کردن ابن غزاری بله مطمئن خودتون بخونید شما به همین نتیجه اما تصروع در جرح من نمیتونم تصروع در جرح یک با تورقی و مقایسه همین به ذهنی هم. نه این توب این اول انگل دیگه حالا مثل اول انقلاب تا کسی چیزی بود نشمون از دویل تقیی من یادم تو محله خودمون تو تهران این امام جماعت ما که امام جاعت بسیار خوب و دوست داشتنی بود برگشت گفتش که آه این تکبیل رو بذارید بعد از تصفیه ها از زهر فردا شب بچه ها داد دادن مرگ پرزده سه چهار شب پنج شب هفته بعد دیگه ایشون رو نذاشتن بیاد دم من یادمه یا سید بزرگواری بود مسجدی که مال آبا و عجیز هم بود شروع کردن این کسی زود بگیم تصروی در تصروی نه اما اینکه ادبیات تنده در جه قبول داره ادبیاتش در جه تنده اما تسلم معنا داره یعنی اینکه یه چیزی دیده اومده این کارو کرده این یعنی جای نبوده من این رو دلیل پیدا نکردم و این مواردی هم که فهموندن رو قانع نشدم اما کثرت تزويفات خب با کتاب زوها نمیشته کتاب زوها اون باید نمیتونه باشه حالا این که از این اصطلاح استفاده کرده و از اون اصطلاح کمتر کذابو اینو خب دیگه اون خاص افراد دیگه شما توی اهل سنت مثلا میگن که آقای بخاری خیلی کمتر استفاده میکنه از این اصطلاح اون یکی نمیدونم بیشتر استفاده میکنه میگه افراد متفاوت هستن دیگه تو الفاظ و رو این رو نمیتونیم بگیم که حالا نکته قابل توجهی هست ولی به نظرم من میاد که این چهار تا اشکالی که میکنه اشتهادی عمل کردن درسته و کسطه ترزیفاتش هم اشکالی نه من نکتم اینه که ما بیا مبنایی صحبت میکنیم اگر مبنایی بخوام صحبت بکنیم ما حتی بریم ببینیم, ببینیم آقا به هر حال این بشر این جناب آقای ابن قضایری رجالی هست یا نه سقم هست یا نه یا میپذیریم یا نیپذیریم می اگر نمیپذیریم خب دیما هفته ندیم اما شد این آقا رجالی درسته؟ رجالی رو قبول داری؟ سه است حالا ایشون می که یه نفر ضعیفه جناب نجاشی میگه گه یا بر بس. اینجا چی کار باید بکنیم؟ اینجا باید چیکار بکن؟ بکنیم؟ بابا این قاعده داریم تعارض در جر و تعدیل چی بکنیم؟ اگر جاره یه چیزی گفت معدل یه چیزی دیگه گفت از زمان علامه هلی تا الان من اطلاعاتم اینشان قبلشم بوده درم توی چیه؟ دحث جاره و معدل اگر تعالوز داشت چی کار یه دسته زیادی گفتم قول جاره مقدمه چون یه چیزی دیده که معدله ندیده یه دسته هم گفتم توقف میکنیم این که معدل قولش مقدم باشه قائل نداره ولی گفتن بعضی ها بوده اصلا یا جاره مقدمه یا توقفه دلیلش هم روشن عقلیه دیگه من میخوام برای یه نقرد میام از شما تحقیق کنم میگم آقای حسن آقا شما بگوییم بنده خدا رو میشنست یا نه میگه که والا آدم خوبیه ما هم وقت دیدیمش خوب میاد میره و میاد باز اون کیامس این پولسان سیگاری هست. بعضی وقتا بهتون یه دزدی هم میتونه. گاهی وقتا مشغوبوره. هر دو تا هم سگه هستن. میگه آقا ایشو آقا ایشو ندیده. میگه دیده. اونای مشتاقید ما به از این طرف پرسیدن که ایشونو میشناسه که آدم خوبیه. خب چه جوری آدم چه جوری آدم؟ اون نماز خوندنشو ندیدم ولی روز روزه رو دیدم. خب جاره اگر همچین چیزی باشه جاره ببینه خب میگه وقتی که گفت اون آقا که معدل هستش به فساقتش لطمه نمیخونه ندیده حالا این که ایشون بگی آقا بله ایشون میدونه جرک کرده حالا ما بگیم آقا قاعده داریم تعالوز در جرک و تعدید باید اگر ایشون قولش قابل قبوله سقه هستش بوله جالی هست باید جرکش ایشون جالهه اون آقا معدل تا بعد بر مبناه باید بریم مبنای شما چیه؟ مبنای من مثلا میگم شهادتیه خب آقای ابن قزاری اشتهااد کرده اشتهاادش برای من نیست نه من مبنام قول رجالی رو از بابت چی قبول میکنم از بابت خبروی خبرگی درسته خب تعارض شد بین آقای ابن قزاری و آقای نجاشی از دیدگاه من نجاشی خبره قول ایشون میشه. آقا مبنای من نه اون هستش نه از باب شهادت قول رجالی نه از باب مثلا خدمت شما ارز کنم که خبرویت مثلا از باب اتمینان هستش آقا من از قول ایشون اطمینان حاصل نمکن این را معنا حالا با بگیم که این دوتا مقایسته بکنیم بگیم اینشون خیلی جرعه سنگینه و یه چیزی دیده دیگه نه ما, ما رجالی هستیم خب آفرین آن نه دیگه من الان قول رجالی رو از بابتی چی قبول میکنم از باب شهادت آفرین اشتهاد قبول نمیکنم آفرین میخوام میکرم که این برمیکرده به اون مبناتون شما اصلا مرحومه های مسئله های قویی برفرض که نسبت این کتاب رو هم قبول میکردهش چون معنا شهادتی ارزشش نمیتونه اصاله ایشون رو بپذیره تو اشتها داد بعد نگاه کنه اگه اشتها بود قبول نکنه تو شهادتش قبول جوین انتقابه نمازیمون بعد چهارش دیدن وقتی حدا نمینه اخطار به آره وقتی اخطار همش شد عمد الى حاضر حاذیین کتابه البته این دو تا کتاب نیست فهرست اون دو تا کتاب دیگه هستش حالا ما گفتیم تو بحث آه، این آه، این اینم در زمان چی بود؟ اخباریان و بعد اخباریان بود قبلش؟ بروی. نه این که بالا 100 پیشه. این نه میخوام بگم که از... ببینید اگر نسبت رو این اصلا یه قاعده شد دیگه گفتیم اگه بحث نسبت کتاب رو بپذیرید. شما که از اخبار... ده هم ده به بعد به دیگه... بعد حجمه شد. حجمه, شد. خب حجمه به آرا باشه. نه نه حجمه به آرا هست. بله ما یه گزارش داریم. که ایشون وقتی که جوان مرد شده ورسش کتاباشو از بین موندن حالا این کتاب ها شاید به خاطر همین تندیش بوده این میخواستم بگن اقا پروندهش بسته دیگه هی نه این سراغ ما بپرسی بابای شما بابای ما رو بد گفته خیاله دارد بابای ما فوت کرد ما کتاب ها چوندی خدا رحمت نور بابای شما بابای ما رو اینطوری کردن میره اجازه ما اینطوری کردن ما یک گزاره نیم خطی داریم با گمانه داریم می‌گیم جلو این گزاره نیم خطی تو مقدمه فهرست جامشید کامونشش طرفی نداری گمانه است احتمال دار گمانه من بیخود باشه گمانه شما درست باشه گمانه کسی در تا همش خراب باشه الان خود ابن غزالی بیادش اینجا حرفم بیشتر فرام که میگه اینا چی دارن میگن درود من میگم احوال خب ما چون دستمون نمی‌رزه داریم حالت اجتهادی صحبت می‌کنیم دیگه خب این از این نکته هم من به نظرم میادش که اگر مبنایی بریم جلو اصلا اینکه که بیان مقایسه بکنیم این کتاب تموم شو زمان هم؟ نه خیلی زمان دارید فقط مخواستم رو مسادیخ هم اگه ممکنه بله چشمیه مقایسه این کتاب هستم با کتاب های رجالی دیگه معنون ندارم مگه اونا زو افا نمشتن بگیم که ما تو این کتاب مقایسه فقرات چرا؟ فقره اینجا اینو که مقایسه روی مسان المیزان و کتاب زعفای اوقیلی بود میزان الاعتدال که اونها هم کتاب زعفا هستن و باشه. البته روی رو... روغات بود ما احسن توی زعفا اول کار بودیم ما احسن شیوه متفاوت بوده واقعا به اطلاعاتمون ناچیزه یعنی ما احسن نمیدونیم روی مشترک مداخل رو مشترک مداخل مشترک مقایسی کنم حالا رو و اون چیزی که به ذهنم میادش که این بحث باید این که مثلا ما کذاب و از مثلا یه از آل حدیث بگیم 16 درصد کل بوده و کتاب های آین و احنسون ندگیرین من از دقیقه چیزم نشد قابل قبولم برام نه اما بگیم سراخه از این مداخل که حالا من اتفاقی هم این دوتا مدخل رو به ذهنم امردش کفته اینم بگم ها ابن غزانی ما همیشه تذیفاتش رو میگ اون توصیقاتش اونم قشنگه مواردی رو کرده که بقیه تذیب کرده. حالا شاید بگه اه آقای این همه خلاف جهده مثلا محمد ابن اونمه البته من بگم توی مطم و مستدر محمد ابن اونمه رجالیون متقدم همه ایشون رو متهم به غلوب کرده یا همه یا بعضی ها ابن قضایلی میگه ایشون مبررست از اتفاق توضیح میده حالا چون وقت نیست من همه جابرم نیزید جوفی انتظار اینه که ایشون خیلی بمبارونش رو کنه ایشون نه تضیفش که نمی کنه توصیح کنه در حالی نجشی تضیف ده زید نرسی و زید زررا هر دوتا رو میاده شیخ صدوق میگه که کتاب های ایشون ساخت هست ایشون حرف شیخ صدوق رو نفی میکنه و فکر می کنم آورده باشم و ابو جعفر ابو جعفر منظور شیخ صدوقه حاض ق و اننی رعید و کتو و خ ما مصوعتون ز محمده به نبیقومه این تایید کرد احمده ابن حسین ابن سعید که دیگه نرخ شعببای بعضی از مبعثقلوبقول جالیون گفتن ابن قذای میگه تا اونجا که میگه که رجالون قوم تضیفش کردند اینها ولی من تا اونجا که خودم بررسی کرده اینشون آدم ساله می هست و قالقوم میوم خانه قالیا. و حدیثوه فیمار ایتوه سالمون برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی اون لئیسد تنفی ولیکن تنفی من ابن غزایدی قتر رو از وی نفت کرده حسین ابن شازویه اینم هفت و می نفت قمی ها به غالی بودنش معتقد هستن ولی ایشون می من کتاب و رو دیدم و میگه که که زعمال قمیون انهو کانه آلیا. و يا تو له کتاب فصلات الصلاۃ سدید کتابش که تو اون اجتهاد اجتهاد ها میبینید که همه این مقال قاسم ابن حسن ابن علی ابن یختی امیه ها دوباره ایشون رو قاضی دونستن ولی ایشون ظاهرا نظرش متفاوته اما حالا تو اون دو سه موردی هم که حالا جناب استاد بیان کردن مثل جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری بله این ایشون اومده عبارت رو تون گفته من رو حرف خودم هستم ایشون تون برقور گفته که از زابون متروک کل حدیث جملتن و فی مذهبه ای ارتفاعون و یرفی انز زعفای و المجاهیل و کل عیوب زعفا و, و فی این یه دونه مختلون نداشته باور وقت و عمل اینقدر خرابش نمی کرده. این یه مدخلیه که هر کسی که در مورد ابن قذری صحبت کنه معمولاً این مدخل اینشون رو بیان میکنه نجاشی هم از اون نقل می‌کنه کانا از الحدیث و از بله بله همدازه یه دونه هم گفته که اون نجاشی هم گفته. نه هم همین اوقاتم هم نجاشی نه دنم این رو میاره دو سه تا روش. و این ابالتها رو بیان میکنه که اضافاتی داره من آوردم اینجا کانه از اول حدیث و از آن و یلمی عن المجاهید منا ادری کیفر رواحن شیخنا النبيل السقي ابو علي بن حمام و شیخنا الجليل السقي ابو قاضي الزراري رحمهم الله من نمیدونم چرا این دوتا آدم بزرگ ازشون روایت کردن دروس ابو غالب زراری رو بگو خونساز همه اینجور چیزا درست. من قبول دارم اما بابا نجاشی امینو میدوننست نجاشی نمیدونه چرا علم حلی علم حلی که هر دوتا رو دید علامه هلی همه اینا رو میاره خود شیخ توصیح هم درسته تو رجال میگه سقه تو فهرستش میاره و نه توصیح میاره نه تضعیف ولی تو همون رجالش هم که توصیح میکنه سری میگه که این رو خلایق تضعیفش کردن البته نشون میده که معدل آگاه بوده از تضعیفاتی آره آره آره بله چیزها رو دیده و بازم تضعیف بله کرده ولی بله بله یه چیز تو اثبات میکنه میگه روا فی مولد قائم این نظر شریف خودتون رو بسرمه من همین نظرات همین ها سیگال نبودم این که نقل شد من الان میخوام بگم بله ببینید من. من. فرمایش ده. مرحوم شیخ دوسی که به توان داره نشون میده که علت تضعیف اون عاجیب بوده چیزی من. که اون به مبنان برمیگرده آقا یعنی اگر مبنای من شهادتی باشه یه چیز هستش اگر مبنای من خبرویت باشه باید قبول کن. تا آخرش بنخرید یعنی اگر باید. چیزی باشه بعد اونو قبل وقتی معدل از این تضییفات آگاه همه ای ما توصیف ما حالا من ناقوت شما میام شما ناقوت نمی نه سوال میکنه میخوام ببینم ما خدنا چه شي ببینید ما الان تو 100 سال اخیر دیگه از حالت رجالی بودن در اومدیم هممون قرائنی شدیم رفتیم سوال قرائن با قرائن خیلی از این ها رو داریم درست میگن اگر نداری نداریم ما الان اگر بخوام رجالی یا قه باشیم یعنی آقای پویی یعنی اینه مطمئن که دهماده ایشون اومده بخارم نگاه کنیم باید اما ما اگر قبول میکنیم ایشون رو با خب، الان قراریم این و رو بر سوال اینه خب، ما الان, الان شما اسم ایشون رو تو سند دیدیم الان به اسم ایشون رسیدیم الان رو سه موضع بیشتر نمیتونه انتخاش کنه اون بحث شناسی. نه اصلا سند رو ولش کنین یه سوال آقا این راوی از نظر شما سه موضع بیشتر نمیتونه داشته باشه یا سقطو رو... نگاه رجالی تضییق نگاه رجالی تضییق نگاه اعتبار سنجی نگاه قرایی ابو غالب یعنی ابو غالب زوری اخذ حدیث ابو علی و توصیف شیخ طوسی توصیف ابو القاسم کوفی اللهم ببر بر بر ابو غالب زراری که شما میفرمایید یه نفره؟ یه, من یه نفره که کاملا مباشره با اوسه. باشه. باشه اجازه بدید. اما نجاشی می دانست مباشر هست یا نه؟ متن ابو غالبو دیده یا نه؟ ما نمیدونیم علماییک که ندن. اون دوره‌ای که هستش و اصلا تعجب هم ابو علی هم ابو غالب هم محمد بن یحیی مهمترین شیخ ببید. در واقع چیزی که هستش ببینید عبارات هایی که هستش نه تنها حرف ابن قزالی معلوم منابع دیگه داشته اگر فقط من و... فقط اگر من و ایشون همون همون‌طور قال احمد ابن حسین همین الان رفت هم میادش میگه که حدیث شاید شاد متأثر از ابن غزائری در حالی که در حالی که ابن غزالی کلمه حدیث سازی رو و کذاب مطلق قال حدیث و کذاب یعنی چی دیگه دروق. دروغ تو کارخانه سازی این چیزایی که دروغ ولی این عباراتو نمیاد حدیث نه, نه نه نه نه نه مفهوم مطلقو توجه کنی خانه غزاول حدیث وزن یعنی به نظرم میادش که منظور اینه که نجاشی تحت تاثیر ابن قزائری باشه منظور اگه اینطوری باشه داره... با دوستا که کسی که خانزاد این فرد بوده هم هست. نبینه ازش اجازه اجازه بگه پر 80 سال آینده شش. بیاد ابو علی نبینه این رو محمد بن یحیان نبینه ابو غالب نبینه ابو الگاسم کفی نبینه شیخ توسی هم که دیده اینا رو باز توصیق بکنه بعد نجاشی فرق. بیاد از احمد این و دون حسین رو. بگیم, بگیم باز شما وقتی به شیخ علام هلی میرسی چی میگه؟ فندی فی حدیثه ای چرا شما توقف نمیکنید استاد منو علامه شو شما توقف نمیکنید نه من, من حقیق <تصفح> رجالی بخویم بریم باید توقف کنیم رجالی بخویم بریم نباید توقف بکنیم این عبارت آه آه ها آهده داریم آقا جاره یه چیزی دیده معدل نید آخه نمیشه این این فاز این فاز منطقی نیست استاد به خاطر اینکه اگر ابو کاملا مباشر او و خانزاده او نبود این حرف درست بود اگر جاره مباشر بود معدل فاصله داشت این حرف درست بود اگر معدل از تضعیفات آگاه نبود این حرف درست بود این با قراره این جور در نمیده انصافا امکان نداره حالا من سیاسی نکنم تو بعضی این موارد انقلاب خودمون بعضی از افراد رو اینقدر ما به به چهترش رو از نزدیکان اون طرف شنیده بودیم. بعدن که مشکلاتی پیش اومد مقال سیاسی ده. و مقال دینی دقیقی فرق می کنه وسط. میگم یه احتمال بدید، احتمال بدید. آقا دو نفر نیستن مباشر اینش که شما محمد بن یحیی ابو غالب، ابو علی و ابو القاسم کوفی. رفتارش نشون داده که به این فرد مطمئن بودن. بعد کسیه که مشهور به زهد نجاشی نمیدونسته که این ها شاگردای خاصه نجاشی تحت تدریس ابن قزائری نجاشی برای حسن علی ناصر اطروش میگه که تو کتاب موالید الائمه لا صاحب الاب اصلا ناصر و اطروش الان این به دلو زیدی ها میخندن میخننن به ما آخه موالی ما تو اشتها آنه کتاب نسبت میده به ما تو اشتهاب همینه اشتهاب خطا کرده خب خ... اینجا هم خطا کرد چیزایی؟ اختیمان داری؟ آخه یه کتاب اختیمان یه... یه کتاب به یه کسی نسبت به امام زیدیه کتابی کتاب یه... ما شیه نسبت داری؟ ما ارز کردیم که اگر معنا شهادت نه کاری به شهادت ممنون اطمینانه اگر معنا اطمینان آره من هم گفتم اون اطمینان من از قول اون اطمینان حاصل می‌کنه شما از قول این اطمینان الان از قول ابو طالب اطمینان حاصل نمیشه که نه. برای شما روش مثلا برقرار نمی‌شه مخصوص اطمینان که دیگه اینقدرم بی‌قاعده نیست که وقتی که ببینم که این آدم‌های بزرگی مثل نجاشی دستش لرزیده و چند تا هم گذاشته روش رو فرمانش آی ابنا قاضری بند دستم. نه چند تا نداشته روش همون اون یه دو رو گفته از دیگه اون کلا و تو که نگفته که یه بالاتر از نو بگی. سیاهی نی. گفته کل به مجتمع فی. نه بالاتر که تصاویر نداره نه که روش این گفته ولی جناب نجاشی خیلی قوی تر گفته. من بیشتره. بله اون بعد گفته. توی بحث که میشه بفتش که حمشه گفته داشت که منشأش باورهای کلامی ابن قزاری و نجاشیه. پای منشأش باورهای کلامی ابن بازوی نشی نمی‌دیم بگیم. ما نمیتونیم بگیم. یه خود هم این گمانه رو مطرح کردن. ولی دست تا آدم می‌لرزه یه گمانه حد. آخه این جعفر بن محمد بن مالک میگه که اون فی مذهبی ارتفاع روایاتی در رد همنشینی با قولات ازو به ما رسیده ام. و ما میبینیم کسانی که در واقع و الان همه احادیثش به دست ما نه، نه رسیده نرسیده ولی اونایی که هم اونایی که مباشرش بودن او رو توصیف کردن خب اینم از این نکته نکته بعدی هم خب حالا مثلا در مورد معلا هم مثلا تو هم عبارتی بله. که هستش باز همینطوره مولد مخنیس مولا علی عبد الله کان اول امره مقیلی یا دعا الى محمد ابن عبدالله الله ابن الحسن فی حاضه ز نه داوود او علی فقط حالا این جریان به تو رجال کشی رجال کشی هم روایات معته ایشون آورده هم روایات زم. البته انساناخن روایت مع محلا متظافره به تبیر معوم های خوبی خ تو اون روایتش هم داره که مثلا ذبیحه یهخودو میخورده و عرضت میگه نه حالا این طبیعی اشتباه کرده مشکلی هم نداره خیلی نمیشه اشکالی گرفته یا موارد این چننی و حضرت هم براش دها کردن که فرمودن اما باللہ دخل الجنه به این صورت عبارتی که گفتن به هر حال عبارت عبارت گویاییه باز ما برنج برنگرد می و یعنی ما اگر قول رجالی رو اینطوری ببینیم خب اینجا اشتها کرده نهایتش حرف مرحوم آقای شوشتری رو میگیم آقا در خصوص موغیری ها و این موارد اشتباه کردیش نهایتش ها من متخصص نیستم میگم خودم بعد مذهب نگارها اونهایی که اهل مذاهب بستن و بحثای عدیان رو مذاهبی میکنن بیا بحث بکنن و این آن آقا باقر اینشون سابقه مغیری داشته یا نه حالا این نظر ایشون هست که ولا علا اعتماد علا شعی علم حدیثه شخصیت راوی یه چیزه نقل حدیث چیز دیگه است رمایاتی که علیه نفس زکیه دارم بازم شما میگید بعد ببین موغیریه آخه چ... <تصفيق> نه میتونم بگم اونم میگم می اشتها خراب کرده نه آخه مگه نهایت استاد بده کسی, ر... ایشون... کسی که روایات مت کشی رو ببینه روایات ذم او در مورد نفس زکیه رو ببینه تردید نمیکنه که اون مغیری نیست چطوری ابن غزالی او رو مغیری میدونه این سوال اصلا همین دیگه‌ست نکته یعنی با چه کیفیتی دلی میشه فهمید که یک نفری که هر جا مطالبه میکنید مغیری نبودنش ثابت میشه بعد اون قزایری میگه مغیری بودنش بعد میگه داوود ابن علی هم با همین اتهام او رو گرفت در حالی که ما میبینیم امام صادق برای او دعا میکنه میگه او داخل در بهشت قاتلش رو نفرین می‌کنه اینا همه جایش سوال باشه گرفته به نظر من نمیشه به این راحتی گیریش رو اشتباه کرده از این گذشته مثلا خبرویت او و خبرویت او رو سوال می‌بره اتفاقا نقطه‌ای که شما ماتون تا نکته هم بحث اینه روح این کتاب اشتحاد رو کتاب اشتحادت اینقدر گاهی خطا داره که خبرویت مجتهد داره زیر این سوال این میبره ایک. و بعد اگر بقیه روایات اینها هم خیلی جاش بیاد شد معلوم نیستم چه چیزی باشه این هم کاری به روایت یعنی اگر اینگه... بعضی از این مواردی باشه که ایشون که فاصله زمانی داره نقلی که داره ست سال قبل کشی داره مفتن. توضیح میده این وارد خواهی از باشد. مورخین متکلید شوزه با این باشه نمیشی گذاشت اینم از این دیگه یه نصد دیگه بالا سطح هم نوشته بوده قلا یا در مورد خود مثلا محمد بن عبدالله ابن مهران الکرخی که ایشون بیان میکنه قال زعیفون کذابون این من مثال نزم چیزی نزم من دارم مثال میزنم. دارم ب... ب... بیان می کنم اینجا محل بخشیز استاد اجازه بدید لهو کتابون فی الممدوهین و المزمومین یدلو علا خبسی و کذبه شما بینید که تمام کتاب های دیگمون هم, هم همیشون روی می میارن معمولا زرفش هم بیشتر بیان می کنن. این طرف داریم که بعضی ها رویشون میادش به همین انقدر اکتفا میکنه دیگران هم ضعف بیشتری بیان می کنن. که حالا وذاق الحدیث ضعیف و دیگه رمیه به قلوبش شده یا حتی ابن نوح در مورد ایشون میینه مثلا این کتابش باقی کتابش تخریده و در منابع نوسیه هم مثلا ابن مهران مثلا با اجماع امامیه بر ضعفش بهش مثلا عنایت دارن توجه یک دقیقه فرصت البته بله من جمع بندی بگم اینه که ما هستیم و یک کتابی که اصل و اساسش در مورد نسبتش اما اگر و اون چی که از این کتاب هست ما حالت اجتهادی ایشون رو می‌بینیم که پرخطر است. و اون چیزی که تضییفاتی که ایشون آورده خب باید بررسی بشه بعضی از این وقتی اجتهاد شد امکان خطا هست بله ها تون هست بعضی جاها و قابل بعضی جاها حتی اشتباه میتونه باشه بگیم خطا است حالا می‌گی آ چه جور بگیم, بگیم خطا است بله خطا اشتباه دیگه ما الان وقتی که همه مشتا بزرگ بزرگوار ما الان تو فرتاوا فتوایی میدن اشتغال بکنه همه با همه هم یه همداسته تو وجهه موارد اشتغال میکنه حالا یا گزارش هایی که تو دستش بوده یا بررسی های کتابی کرده ایشون وقتی که افرادی رو میاره میگه مثلا فلانی مثلا مثلا مثلا معتقد در موردش میگه هو پی نفسه و اندفی نفس و سغتو لاکن نه احادیثو کله ها این حساب میخواد فرق بذاره وساقت رو و اون حدیثش رو حدیثی که نقل کرده مشکل داره حتی میگه این عبالت رو آورده ولی میگه حوال فی نفسهی سه قطع من به نظرم میادش که ما فکر میکنیم باید در خصوص قدما یه بازبینی بازخانی بشه که بخشی از این کارها شده به همدلله باید بیشترم انجام بشه اون شیله هایی که قدما ها داشتن خب همه با هم همسان نبوده طبیعتا فرق میذاشتن بین وساقت راوی بین دانش راوی و بین مذهب راوی تو این ستا حوزه توجه داشتن و اون چیزی که جناب ابن قضایری بیان کرده حالا این که بر چه اساسیشون تضعیف میکنه ما گذارهاش مجمله این اجمالگویی تو سر تا این کتاب موج میزنه ما نمیتونیم دقیق بیان بکنیم مثلا میگه بعضی از رو میگه و عمرو و رو من امیوس کرد اینقدر برای اون اون مشهور بوده مال بزرخودی رو میگه خیلی مشهوره دیگه نگفته خب بابا به ما نرسیده مرد مؤمن اگر اون زمان مشهور شده 50 سال بعد دیگه کسی خبر نداشته باشه این اجمال اویه در این کتاب سبب شده در بعضی از موارد مشکل پیدا بکنید در مجموع من به نظرم میادش که ایشون اشتهادی کار کرده و توی شیوه بیانش بیان توندی داره این بیان توندش دلیل نمیشه که ما بگیم ایشون تسرلوه در داره بلکه سطح تذیفات داره کتاب زعفا میشته لازمه کتاب زعفا اینه ما اینقدر کتاب زعفا تو شیه نداریم بگیم آقا مثلا فلانی فلانی فلانی مقایسه کنیم درست در بیان و خیلی ممنون در خدمت استاد حسین پوری هستیم استاد اگر نکاتی در بورد فرمایش استاد غلام مرادید خیلی سایچون وقت اونم خیلی کم هست آره ما هم آقای مسعودی گفته که تا هفت تمومش کن بعد بریم انجامن حدیث حالا ما هم امشب شب انجمن حدیث هستش حالا اون عزیزانی که انجمن حدیث باید بره خوبه که ما در محضر حضرت بکنیم در خدمت بودا ما قبلا به این آقایون گفتیم جزا رب نمیده در خدمت شما خیلی ممنونم تشکر می‌کنم جان وسر و لوه به از بنده شما مطالب متعددی فرمودن که دوباره بخوایم اینا رو واردش بشیم خب از بحث اصلیمون دور میمونیم من برای اینکه حالا این بزرگواری ای که تشریف زحمت بعد ایشان تشریف آوردن اصل ادعای ما رو بفهمن چیه ما نخواستیم مثلا یه لیستی از اموات اینجا اقوال نقل کنیم و بخونیم این کاری بود که خود بزرگواران شعنشو نجد از که نیازه به این چیزا داشته باشن ما آقا کلن به تا ادعا داریم یه دامون اینه که کسی که با تاریخ و حوزه رجال و حدیث شیعه آشنا باشه با توجه به کسرت عوامل دخیل در تضعیفات که بسیاری از این عوامل هم ناشی از ذهنیت ها و پیشفرز های این شخصی است که داره قضاوت میکنه اجتهاد میکنه و خیلی از این عوامل عواام است که ربطی به راستگویی و دروغویی راوی نداره اما پیشورهای کلامی است اطلاعات اشتباهی است که احیان درباره اون راوی به س نظر این آقا رسیده تو منابعش وجود داشته کم این حالا تو این نمونه ها هم می و همین اشاره بکنم مجبوع اینها دائما این <تصفح> تعل توش بشه کم که سیری اوقلایی هم همینو اتخ... همینو... در واقع اقتضای میکنه ما آقا جره غیر مفسر از اهدی قبول نمیکنیم حالا اینکه که مبنی و شهادت و اینا دیگه حالا این اواخر دیگه معمولا معاصرین غالبا قائل به بحث اطمینان هستن به سمائل اطمینان جرح غیر مفسر از کسی نمیشه قبول کرد اینکه که حالا قول جاره لزوما مقدم است و اینها علاوه بر این که حالا امروزی ها هم دیگه هیچ کسی بهش قائل نیست نهای خویی قائل نه مرحوم شوشتری قائل سال هاست که دربارش بحث شده و این مطلبی نیست که امروزه اصلا خیلی قابل توجه باشه حالا نه اینکه چون قابل توجه نیست منم میگم یعنی بحث علمی در نقدش انجام شده به اندازه کافی که ما قاعده ای نداریم اغلاییان که همیشه قول جاره مقدمه یا همیشه قول موثق این یه نکته، اینه ادعای اصلی و کبرای کلی ما اینه که جرح غیر مفسر سوا اون کان من ابن غزائری، او من الكشی، او من النجاشی، او من اهد، او من, من الاخرین لا یقبل مالم یفسر، جرح غیر مفسر، مفسر تو اون در واقع مستند جرح هم باید کاملا مشخص باشه صرف اینکه مثلا لهو روایاتون که مثلا مثلا تداله علم غلوف مثلا بیار ببینیم ما چی, چی،, چی بوده که تداله علم غلوف ما ببینیم،, ببینیم شما فرض میگیریم اشتباه اتفاق میفته اگرچه اینا خارج از بحث ماست ولی متاسفانه مجبورم بهش بپرده بح... مرحومه یا تون بعضی از معاصرین گفتن آقا قدما با ما در بحث غلوف هم مبنا هستن سلام اشکال نداره آقا این که کبرای کلیه این که مسئله رو اثبات نمیکنه در تطبیقش بر صغرا یا اشتباه کردن یا نکردن فرض کنیم من قائلیم که الوهیت ملاک قلبه یا مثلا قله به قدم ملاک قلبه یا اباهیگری ملاک قلبه تطبیقش بر این روایتی که ای آقای راوی روایت کرده این چه دیگه اجتهادیه یعنی اینکه دیگه ما نمیتونیم صرف اینکه که میداریم با او هم مبنا هستیم در حالی که از مجموعه این شواهد احتمال جدی میدیم که در تطبیق اون کبرا بر صغرا در واقع صغرا اشتباه کرده باشه تا زمانی که اثبات نشه که ما نمیتونیم در اعتماد بکنیم یا آقا آقا درست تطبیق داده کبرا رو بر صغرا بله به خبرویتشو مشکلی نداریم احوالشونو مشکلی نداریم کما اینکه اونها مجتهدان ای کسی در مقام تقلیده بله میتونه از نجاشی تقلید کنه اما ای کسی میخواد مجتهدان وارد بشه نمیتونه فرض و بر این بگذاره که حتما اونها در تطبیق کبرا بر صغرا اشتباه نکرده باشن کما اینکه در این موارد میخواستم همین رو اثبات بکنم توضیح بدم که در تطبیق خیلی از کبره ها بر سقره ها اشتباه کرده این اصل یکی از ادعا ادعای دوم اینه که با توجه به مجموعه خطاهایی که ابن غزائری در رجالش داره که بعضی از این خطاها خطاهای خیلی فاحش هست که با مقایسه با دیدگاه های دیگرانی که در درباره همون راوی, در راوی قضاوت کردن ما متوجه میشیم ما به این نتیجه میرسیم که از نظر اقلائی نمیتوانیم به تزعیفاتی که خواهش به این عبارت انایت بشه تزعیفاتی که درباره رواتی که شناخته شدن و در حوزه حدیثی ما در حوزه حدیثی شیعه در تراس فعلی ما شعن قابل توجهی دارند و ابن غزائری با دو قید. پس یه این شد که شعن قابل توجه روایی داشته باشند یه روایاتش به تدار قابل توجه باشه. بله مثل امثال مثلا عمر ابن مختار یا بعضی از این افرادی که تو نسری روایت دارن اونها محل بحث ما نیست. اگر یک کسی باشه، شأن روایت قابل توجهی داشته باشه، یک و ابن قزائری در تضییفش متفرد باشه، با توجه به این مجموعه شواهد ما اوغلاا نمیتونیم به تضییف ابن قزائری عکس بکنیم. معنیش این نیست که توثیقش میکنیم نه، به این تضییف نمیتونیم عکس کنیم. کبرویان هر تضییف غیر مفسری معتبر نیست. به طور خاص درباره ابن قزائری علاوه بر که اون قاائم کبرا وجود داره به طور خاص چون کسرت اشتباهات رو در این ملاحظه می کنیم به طور خاص تذکرات ایشون رو همین کثرت اشتباهات خبرویت او رو مورد مناقشه قرار نمیده ممکنه یه مرجع تقلیدی فرض کنید 2000 فتوا در به نماز داره ممکنه 500 تاش اشتباه باشه که ما اینکه هست خیلی هاشم ادعایی ندارن که ما مطابق واقع هست میگه من تلاش می‌کنم میکنم حدا این منابعی که دستم هست دارم قضاوت میکنم. ادعا نمیکنه که حسابه‌ای به واقع میکنه. حالا من مثالایی که میخواستم از بحث ابن غزالی مطرح بکنم متأسفانه نمی‌رسم همشو بگم مجبورم خیلی سریع رد بشم مخصوصا رو کلمات تعارض بین کلمات ایشون با کلمات نجاشی یا بعضی از بزرگان دیگه تمرکز می‌کنه از که بتونم سریع رد بشم حالا متاسفم وقتم زیاد نمونده مثلا قاسم ابن روی صحاف یه دسته ای است که ابن قزائری تضعیف کرد در واقع ایشون تضعیف شدید کرده ولی جالبه که دیگر رجالیون در این حال که متعرض روایتش متعرض این راوی شدن مدخل براش قرار دادن هیچ تضعیفی نمیکنن مثلا قاسم ابن ربیع صحاف کوفی ضعیف فی حدیثه غالین فی مذهبه لا التفات الیه ولا ارتفاع به یعنی از حسی ساقطه دیگه مروم نجاشی زیک کرده اسم او رو و خیلی قرار داده و هیچ چیزی درباره او تضعیفی نقل نکرده. نمونه بعدی جهدر ابن مغیرت تائی. ابن غزواری درباره او میگه کان ختتابیان فی مذهب زعیفان فی هدیسه فلان فلان. مروم نجاشی میگه که کوفیان رضوان امام صادق علی استام ذکر دلیل جماعت شد مورد بعدی امر ابن قبل مقدام. ابن غزواری میگه که ضعیف جدا بسیار زعیف. مروم نجاشی ترجمه شو میه مدخلش رو ذکر میکنه لهو کتاب و لطیف مورد ب... و درباره همین شخص اتفاقا مرموم کشیره مد مدهم داره اتفاقا آمه همینجا من رو مفسر آوردن به جهت سبب سلف برو ایراد گرفتند و مشخصه که تضعیف آمه اگه نگیم خاطر همش... مساله بوده بله خاطر تضعیفات نازر به در راقه اعتقادی بوده جعفر بن اسماعیل منقری ابن غزایری میگه کان خالین کذابو. ما رم نجاشی در هیچ چیزی دربارش نمیگه. آن نمیتونیم بگیم تو هیچ کدوم از این موارد هیچ اطلاعی به ما نجاشی نرسیده باشه. این معناش اینه که شریف ابن سابق تفلیسی ابن غزایری میگه ضعیف المصترب الامر یعنی اینها این موارد تسرع در جرحو بالاخره از نگاه ما نمیخوایم شما... لزوما بگیم تسرب نه اصلا بحث تسرب اینا نیست. بحث تسرب نیاز نیست کشیده بشه. بحث اینه که ما از مجموعه اینها نمیتونیم اطمینان بکنیم که ایشون سائب بوده نظریش وقتی میبینیم هی دائم درباره افرادی اظهار نظر میکنه که کسانی که همردیف ایشون هستن هیچی چیزی نمیگه نه یه مورد و دو مورد و مثلا چطور تقویل بکنیم که چون ایشون در موارد حداقل چهار پنج مورد که افرادی متهم به قلوب یا ضعف هستن ایشون میگه ای من روایتشون رو دیدم و سالم روایتشون ما اتهام تسرع به جرح از ابن غذایری منتفی بدونیم اما اجتهادات ایشون رو در واقع تا حدود زیادی همراه با خطا فرض بکنیم ما بله, بله, ای... بله بله ما الان اصلا بحث تسرع اینا رو نداریم اصلا مهم نیست بحث علمی و ارزشی ارزشمند عرضش نیست اصلا ارزش نداره سرش بحث کنیم به ابن تسر رو داشته یا ندشته اصلا فایده علمی نداره فایده اینه که دیگه به وقت درخواش تم تس... هم نداشته باشه باز ما باید با این داده ها مقایسه بکنیم بحث میدانی بکنیم یک صرفاً یه بحث احساسی بکنیم در مقابل هم یه گروهی دفاع میکنه میگه نه خیلی خوبه این چهار تا مثال از اون ور مثلا الان بگن نه ایشون چند تا از مزعفی رو هم توصیف کردن مثلا اینا هم مثلا چکش بکنند تو سر ما بکوبن این بحث علمی نیست و این نمونه های میدانی رو ما باید بررسی کنیم ببینیم که اشون نو اقضاوتش با مروم نجاشی در این مدخلای مشترک چیه مثلا صالح ابن ققبه ابن قیس ابن سمعان قالم کذاب لا التفت الیه مروم نجاشی میگه که این انه ربا ابن عبد الله علیه الصلا و الله از جدش و فلان و این های نکته هیچ چیزی اشاره ای نمی کنه ظفر ابن حمدون بدرایی اینجال البته تذیه ابن قزاری شدید نیست ولی میگه کان فی مذهب ای ضعفون مروم نجاشی میگه من اصحابنا له کتاب و فلان و جا. هیچ اشاره ای نمی کنه عبد الرحمن ابن سالم ابن عبدالرحمن اشعری ز ايفون معلوم ننجشیم معلوم درباره اون میگه هیچ می مدخلی چیز نمیکنه اینو اگه آمارش اون تعدادی که داده های رجالی هم ایراد دارن اگر بفرمایید چون یک دقیقه بیشتر فرصت نمونده تا باید. تقریبا هلوشه تقریبا الان با کم و زیادش تقریبا هلوشه 50 مدخل هست که در رجال ابن قزائری است که ما میتونیم شاهد بر خلاف فرمایش اینا اونایی که داده های رجالی رجال. داده های رجالی مثلا ابن سعید مثلا سعید ابن حسینم که متوفای شده میگه تابعی اون در حالی که مستمار اطباء تابعی عم از همه اینو یعنی عم از مواردی که در توسیق و تضعیفشون اشتباه کرده یا در تشخیص طبقه راوی یا جایگاه علمی راوی از اون طبقات اونها حتی عنوان بله مثلا اونم اگه بفرمایید مثلا فرض کنید درباره <صفيق> <تصفيق> سعید ابن خسایم رو مثال زدید مثلا سید ابن شخصی است که ابن غزایری میگه که تابعی اون علاما زعمه در حالی که این بنده خدا هستن همچنین ادعایی نداشته تا علوش سال از دعات زید بوده از تقریبا سال مثلا 956 و پنج مثلا حیاتش تا علوش سال سد و هشتاد و خورده یعن عمر مثلا هشتاد و خورده سالی بوده داشته و از مادر بزرگش هم روایت میکنه بله. تا زریک از صحابه بله من اینجا روایتش تو مسند احمد هم هست که اگه حالا آورده باشم در مسند احمد با واسطه مادر بزرگش از جدش ممخصنج. روایت بله. میکنه بله. یا باز مثلا ارز به محضر شریفتون که درباره ابو ه... ابو تمام تائی ابن... مروم نجاشی نقل میکنه که احمد بن حسین گفت که شعری دیدم از ابو تمام که عمه رو کرده بود تا زمان امام باقده علیه السلام لأنه... تا زمان امام جواد علیه سلام لأنه توفی یفی ایامه ابو تمام در ایام امام جواد علیه السلام از دنیا رفته ولی که ابو تمام تو تاریخ بغداد هست و جای دیگه اما که گفتن که پسرش خودش گفته سال 241 از دنیا رفته 231 زمان, زمان امام هادی علیه السلامه باز در حسن ابن علی ابن عبی حمزه هم یه عبارتی داره حالا مروم های شوشتری سعی کردم و این توضیحاتی این عبارت رو تصدیحش بکنم ولی به حال عبارت مشخصی که منظورش همین حسنه به حالی که این حدیث رضاف علیه السلام فیه مشهوران نازر به همون حدیث معروفیه که سال جواب ابو علی ابن عبی حمزه پدر در قبره باز نمونه های حالا دیگری هم هست که متاسفانه شده ما دقیقا ساعت هشت هست البته ما با تاخیر چند دقیقهی شروع کردیم یک دقیقه استاد عزیز اگر جسارت نباشه یک دقیقه بح. به تمام ابعاد وجودی همیر المومنی اشاره بکن گفت علم حضرت علی اوف تقوی حضرت علی اوف نیا <تصفح> یه دقیقه نمیدونی چی هسته خب من تشکر میکنم از خضرات که این دلتر رو تشکیل دادن مواسه منتظر بعد باشیم تا مقاله رو ببینیم چون این شیوه که شیوه دقیق و علمی نیست و تازه روشن میشه که مثلا منظور آیه پوری چی هستش؟ مطلب آیه حسین پوری چی هستش که ببینیم دقیقا منظور مبارکشون رو بعد ببینیم بعداً بکنیم و اینکه حالا به هر حال یه جرف نجشی بپذیرین یا نه بپذیرین اینجا بگیم مگه میشه ایشون تمام اونجا بگیم اونجا که به نفهمون نیستش بگیم که اینجا معنی میشه گلیمشه یا به هر حال ما رساق صدوری میشیم یا خدمت شما عرض کنم یا شهادتی میشیم یا اطمینانی میشیم هر طور اینا مترده ما باید بریم جلو مبلوم رو روشن میکنید برای اطمینان هستیم اینجا اطمینان وصول شده اینو در قبول دستور اطمینان رو قبول نمیکنیم میخواد ابن رضایی باشه میخواد نجاشی باشه و بعدی هم این که واقعا هم بتونیم تمام روايات رو در باشه یعنی اون داده‌های ابن غزالی که منظور در خیال ما نیست ما یک پازل از یه جورچین بزرگ دستم این پازل رو گرفتیم میگیم با این, این پازل این قطعه قطع رو از پازل جدا نمیشه یعنی ما اگر اون داده‌های ابن غزالیه اون در خیالمون بود شاید ما هم داستان با ابن غزالی می‌شد شاید هم نه زیر سوال می‌بردیم بنابراین یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه بله یه سری از گزارش هایی که امروزه داریم داده‌هایی که متونه درانی احمده کل از سلام توی داده ها و مجموعه های کتب شیعه هست خیلی از اینها آدم تعجب کنه ولی اگر نه مجموعه اون طور راست رو ما داشته باشیم چه بستا ما هم با جناب ابن خزاری هم داستان بشیم تمام اینها از تلاش علمی جناب ابن خزاری نمی‌کاره. کنه کار بزرگی کرده حالا شاید شما اگر کارش ارزش نداشت بعد از هزار و سال سال اینجا جنب نمیشه نمیشه نمیشه نمیشه باید دیخته ننوشته غلط نداره طبیعتا ما یه نفر اومده یه سری کار زعفایی داره انجام میده اون کار زعفایی هم میشه علیهش هستن طبیعیه حالا اینش باید مشخص بشه که اینها اشتهادی بوده که من به نظرم غالبا اشتهادی هم. تو اشتهادش آیا درست بوده یا که حالا حضرت باید مشخص کننم مثلا تو اجتعادشون به این دلیل به این دلیل اشتباه کده اونجا اول اختلافه ما یا قبول میکنیم یا قبول ممیکنیم روی این جهتش نمیشه انگاه با این داده های فعلی خیلی سخن خیلی متشکرم وقت ما به اصفام رسیده مد نظرمون بود که برنامه سال و جواب هم داشته باشیم که متاسفانه دیگه فرصت نیست ان شاء الله در جلسات بعدی بتونیم به این مهم هم بپردازیم من تشکر میکنم از حضور همه عزیزان از استادان محترمی که و در واقع تشریف داشتن خیلی ممنونیم جلسه خیلی قابل استفاده ای بود امیدواریم که نشست های بعدی هم به همین نحو باشه جهت سلامتی و تعجیل در امر فرج مولامون حضرت بوجهتتون حسن اجماعا صلوات الله